شناخت در دهکده‌ای دورتر از آنجا که ما میشناسیم مردمانی در حال زندگی کردن با هم بودند. دهکده‌ای سرسبز و زیبایی بود و سرزمینی خوش آب و هوا که چهار فصل را در میان خود داشت. بهارهایی دل‌لواز و روح‌بخش با باران‌های ملایم، نسیم‌های آرام، فضای سرسبز و قنچه های شکفته شده انقدر زیبا بود که هر کس ساعت‌های دراز به این ها دل ببندد و تابستانی گرم اما با برکت که درختان را بارور می‌کرد و محصولات زراعی این دهکده را می‌پروراند و ثروتی برای اهالی این روستا به بار می‌آورد پاییزی عاشقانه با برک های ریخته و زرد در سراسر دهکده و سرآخر زمستانی سرد که روح تازهی به دهکده می‌آورد و همگان را به این وامی داشت که هنوز زنده این تغییرهای ناگهانی هوا به آنها زنده بودنشان را هشدار میداد این دهکده هرچند که کوچک بود اما اقلیمی پر از تفاوتها و زندگی در خود داشت صدای بودن و زندگی در این دهکده در سر بود و همسایگان به طول تاریخ دوست داشتند همواره به این خاک دست یابند و در آن زندگی کنند زیرا این خاک نه فقط به واسطه آب و هوا و طبیعت زیبا که به واسطه در و گوهری که در خاکش نهفته داشت همواره ثروت را برای اهالی آنان به ارمغان می آورد. و این آرزوی بسیاری از آدمیان بود که در این خاک زندگی کنند و از سروتهای درونش لذت بگید از آن دوردست شرایط این دهکده چنین نبود هرچند از ابتدا هم بودند کسانی که با رندویی و یسبقت را از دیگران می‌گرفتند و این جامعه را به دو دسته تقسیم می‌کردند قشری که ثروت هنگفتی داشتند و در رفاه زندگی میکردند و قشری که از بذاحت کمتری برخوردار بودند و همواره در پی رزق و روزی جان می‌گندند و به هیچ منزلی دست نمی آفتند اما به واقع آن دورترها خیلی کم و غیرقابل لمس بود و این تفاوت‌های طبقاتی کمتر و کمتر بود اما حال دیرزمانی شده بود که دیگر زندگی آدمان این دهکده رنگ و بوی سابق را نداشت. دیگر تفاوت میان آدمیان این دهکده از زمین تا آسمان بود و این دو دستگی میانشان بیداد میکرد. آنها که در دورترها به نظام خاصی پایبند نبودند و آرام در کنار هم بدون هیچ نظم و یک زندگی در آسایش تو هم بار را تجربه می کردند. یعنی کسی نبود تا به آنان حکومت کند. قدرت کسی از دیگری بیشتر نبود و این ثروت تر میانشان تقسیم شده و آرام زندگی میکردند. بیقانون اما در مرج زندگی نمیکردند، زیرا از گذشتگانشان همواره ارزش را آموخته و بر آن پایبند بند بودند. میدانستند چه کاری زشتی است و چه کاری نیکی؟ و سعی در اجرای همین ارزش داشتند درست است که درون این ارزش ها هم برخی اوقات زشتی پیش میآمد. لاکن با ریش سپیدی و پادر هرگونه هر گونه اختلاف و مشکلی میان آدمیان این دهکده مرتفع می شد و آرام در کنار هم زندگی میکردند. خلاصه که روزگاران نبی لاکن آرام و در سلحی پایدار میگذشت و کسی امیر و پادشاه بر نبود و نیازی هم به این پادشاهان نداشتند. تفاوت طبقاتی میانشان اندک و قابل درک بود و آن اندک تفاوت هم شاید به واسطه تلاشهای بیشتر خودشان بود. اما روزی این روزگاران خوش با تحولی بزرگ روبرو شد. روزی که دنیایشان را تغییر داد. در آن دو دست جایی که کسی فریاد یک پرستی و پرسیدن خدا را سرداد. آنها نیز شنیدند و به خود گفتند ما هم خدا را می پرستیم. اما حال در اشکال و آیات مختلف این پرستیدنهای ما شخصی و در خانه های ما آنگاه که ظلمی به روی من هموار می شود به خلوت می و ساعتها با خدا درد و دل می‌کنیم به زمین می‌افتیم و از او کمک می و او با آرامشش ما را آرام می کند گهگاه دل من می گیرد. با او هم کلام می‌شویم دست به دعا برمیداریم و دلتنگی‌هایمان را با عشق چشم از جان میشوییم و او چه صبورانه در کنارمان می‌ماند و به حرف‌های ما گوش می‌دهد لیکن این خدای همواره نهفته در من را به صحن اجتماع نکشانده و نمی‌کشانی اما حالا بوی صحبت‌های تازه‌ای به مشام می‌رسید دیگر این خدا آن خدای درون قلب‌های آدمیان دهکده نبود. دیگر این خدا آن خدایی نبود که آرام گوشه‌ای بنشیند و حرفی برای گفتن نداشته باشد. این خدای ناطق از زبان نمایندهاش حرف می می‌گفت، میشنید امر می‌کرد و خود را در کارهای شخصی و اجتماعی آدمیان دهکده دخالت میداد. می‌خواست قانون وضع کند. ارزش‌های تازه‌ای برای آنان ترسیم کند این ها را به قانون و عمل کردن به آن را تکلیف هر تم بداند و سرپیچی و تعدی از این قوانین را کیفر سختی دهد حال خدا به زبان نمایندهاش از دنیای تازهای سخن میگفت تا آن روزها در میان دهکده‌ی آدمیان برای همین روز و همین دنیایشان سخن میگفتند و زندگیشان در همین دنیا خلاصه میشد و واسطه آن برای زندگیشان تلاش ها می کردند هرچند در دلشان امید به جاودانگی داشتند این زندگی را کم می‌دانستند و شاید در زمیر ناخودآگاهشان یکی از آمال و آرزوها رسیدن به زندگی پس از مرگ بود و به جاودانگی و این بیپایان بودن دنیا که همیش از حب به دنیا و زندگی طولانیتر نشأت می‌گرفت ایمان داشتند اما اینها شاید آرزو و خیالی در دلهایشان بود شاید هیچگاه آن را به زبان هم نیاورده و فقط و فقط گهگاه در قلبهایشان به آن فکر میکردند از این رو و چون میدانستند دنیای دیگری نیست تمام عمر را صرف همین دنیا و بهتر زندگی کردن میکردند و باور داشتند که پاسخ کردار زشتشان را در همین دنیا خواهند گرفت و برای این مدعا هم مثال های ریز و درشت بسیاری داشتند جوری که از این مثال ها ریز و درشتی ساخته تا به هم دیگر بفهمانند که دنیا دار مکافات است و پاسخ هر کردار در همین دنیا در پیش روی آنهاست اما حالا خدا و نماینده ناتقش بر زمین دریچه ای نور رو به آدمیان باز نهاده و به آنان از آخرت می گفت. از جاودانگی زندگی پس از این دنیا خداوند و قضاوتش آینده ای دور که در آن خداوند پاسخ کردار خوش و پلید انسان را خواهد داد. می گفت پاسخ کردار شما در این جهان بی پاسخ نخواهد ماند. کیفر و پاداش آن را در جهان پیش رو خواهید دید اگر توشه این دنیایتان کارهای نیک و اطاعت از اوامر خداوند متعال باشد به هر آسایشی که فکر می کنید خواهید رسید. تعامی لذیذ، شراب شیرین، دختران و زنان زیبا و باکره برای همخوابگی و اگر از فرمان خدا تمرد کنید آخرت سختی در پیش روی شماست. آتش سوزان، سرب داغ، ملائک شکنجگر همه اینها از زبان نائب خداوند زمین و آسمانها به گوش آدمیان رسید و آنهایی که به طول سالیان دراز در این دهکده آرام در صلح و صفا زندگی کرده بودند هر روز با وسوسه، ترس، زوغ و هیجان تازهی روبرو شدند به نزد پیامآور خدا می آمدند از او میپرسیدند آخرت کی خواهد رسید؟ چگونه آخرت می شود؟ ما پس از مرگ چه می شویم؟ قوانین خدا چگونه است؟ و پیامبری که تک تک سوال ها را با ازن پروردگار پاسخ میداد ولی شاید بزرگترین سوالی که ذهن مردمان دهکده را پر کرده بود این بود که کی و چگونه آخرت اتفاق خواهد افتاد و که با حالتی روحانی و خاص کلمات خدا را به زبان می آورد. بدانید و آگاه باشید که جهان رازشتی فراوان خواهد گرفت اتفاقاتی پیش روی شماست که کسی از زمانش با خبر نیست به جز خداوند عزوجل وجل. این رازی پوشیده برای شماست اما آنگاه که جهان پر از کفر و شرک شد آن روز که جهان آنقدر زشت شد که مؤمنان هر روز آرزوی مرگ کنند آن روز است که خداوند ناجی را برای شما خواهد فرستاد تا تمام زشتی ها را از میان بردارد و مردمی که این را شنیدند و تمام فجورشان کنجکاوی بود که این ناجی چه کسی است آیا انسان است آیا دیو است یا پری پاسخ این سوالها از جانب رسول نبود و در پاسخ اینها تنها به همین بسنده می کرد که عالم قیب تنها از آن خداست و صلاح نمیداند که اینها را با آدمیان در میان بگذارد. اما به آنها خاطر نشان کرده بود که ناجی هم مثل رسول خدا انسانی است با همین و حال که نجات دهنده همه آدمها از زشتی و درد است. حال مردمان این دهکده سخنها را شنیده و کم کم به آن باور و ایمان پیدا می کردن. در میان جمع های بزرگ و کوچکشان به صحبت می و بحث می کردن. برهان می آوردند و کم کم دوست داشتند از آن زندگی پی هدف در گذشته به زندگی منوط بر آیندهای معلوم برسند و به هدفی بزرگ دست یابند دوست داشتند زندگی قدسی را پیشه کنند و به علوهیت به و این آرام آرام میان مردمان در حال پیشرفت بود هرچند کسانی هم بودند که رسول خدا و خدای ترسیم کرده او را کذاب می دانستند که شمارشان هم کم نبود اما شاید آن روزی که یکی از آنها به میدان می آمد و از کذب پیامبر صحبت می کرد و بعد به میاری مشکوکی دوچار میشد و قدرت تکلم را از دست می داد و چندی بعد می مرد. خیلی از مخالفان دیگر صحبتی نکردند و مردم بیشتر از پیش به خدا و پیامبرش ایمان آوردند و خیلی دور زمانی نگذشت که مردم دهکده به حقانیت پروردگار و رسولش ایمان آوردند و یک صدا به راهی پیش رفتند که در آن به طول عمر پایبند بند بمانند و به راهش عشق بورزند و این شروع زندگی تازه مردمان به کده بود پیامبر به دستور خدا حکومتی تشکیل داد تا نظم را به این جامعه کوچک انسانی هدیه دهد حد. خیش به عنوان رسول و پیامآور خدا در مسند قدرت نشست و پادشاه آنان شد. البته خوب خاطرم نمی آید. به او امیر، خلیفه، پادشاه و یا ارباب میگفتند، اما او پادشاه آنان شد و خداوند که قوانین و احکامی را برای آدمیان به زمین می و پیامبر آنها را به زبان می آورد. برای هر کردار زشتی کیفری در نظر می گرفت. قوانین مستحکمی برای هر کار انسانها وضع می کرد و پیامبری که به عنوان جانشین خدا مسئول برپایی این قوانین بود و در طول عمر هم به آنها عمل می کرد و نظام تازهی را به جهان آنان بخشید حال دهکدهی بود، قانون، پادشاه و نظم اجتماعی داشت پیامبر در طول حیاتش برای مردمان نوتهای غرایی میکرد و آدمیان از روز قیامت میترساند آدمیان را از کارهای زشت بر می میداشت همواره از قدرت خدا سخن میگفت و اینکه انسانها بنده خداوند هستند و خدا ارباب به سراسر جهان به آنها گوی صد می کرد که خدا را بپرسید و از او بترسید و در راهش کار نیک انجام دهید تا کام شوید این بشارتهای هر روزه پیامبر قبل از پادشاهی و بعد از پادشاهی بود و سرآخر عمر پرفیز ایشان به سرانجام رسید و در روزی تلخ برای مردمان دهکده جان به جان به آفریدگار تسلیم کرد و به سوی اولویت شتافت. پس از, از آن یک به یک جانشین برای او انتخاب شد و آنها وظیفه اداره کردن مردم را به دست گرفتند تا قوانین خدا و رسولش همیشه در جهان پا بر جا بماند. پیش رود و این جانشینی ها دو بدعت جدید هم در خود داشت. یکی اینکه پس از چندی این والی و امیر داشتن موروسی شد و در خانواده ای برای همیشه باقی ماند. آنها از پدر به پسر وظیفه را محول می‌کردند و دومین بدعت این بود که نام این والی و امیر دیگر مشخص شد همه او را ارباب خطاب می‌کردند و ارباب نام نهایی بر این پادشاه دهگدا شد هرچند به واقع هم نمی‌شد نام این دو اتفاق را بدعت گذاشت زیرا بعد از مرگ رسول هم بسیاری میخواستند از همان ابتدا این امیر بودن را به خاندان و فرزندان رسول بسپارند که البته به هم نشد و بر سرش جنگ های بسیاری اتفاق افتاد پس این بدعت نبود لکن به جای خاندان رسول همین نوع از حکومت ماندن این ریاست در یک خاندان اتفاق افتاد اما در خاندانی به دور از خاندان نبید بدعت دوم هم شاید تازگی نداشت زیرا در زمان حضور رسول هم بسیاری او را با نام ارباب خطاب نکردند اما شاید تنها تفاوتش این بود که در همه حال همگان مجبور بودند پادشاه را ارباب خطاب کنند و این به جای بیشمار اسامی در زمان رسول جایگزین شد پس از مرگ ارباب و گذشتن سالیان دراز فقط این اتفاق نبود که افتاد سالیان دراز در این دهکده اتفاقات ریز و درشت فراوانی افتاد تا این گونه اجتماعی ساخته شود امروز این دهکده کوهن اربابی قدرتمند در خود داشت که بر تمام اتفاقات دوران نظارت می کرد. حکم او ختم تمام سخنان بود قانون وضع کرد و مردمان موظف به اجرای آن بودند قانونی که مطابق با شریعت و فرموده های خدا و ارباب بود از این رو در جامعه از همان سالیان مخصین بعد از مرگ ارباب عالمان دینی به وجود آمدند عالمانی که وظیفه داشتند انسانها را به راه راست هدایت کنند آنها را بر حذر دارند و از فردایشان بترسانند و گاه و بیگاه کلام خدا و ارباب را به انسان ها یادآور شدند آنها با استفاده از اسناد و صحبت و اتفاقات گذشته شریعتی را پای ریزی کردند در ساختمان مجلل نشستند و جدال کردند و زندگی خوب و الهی را پیش بردند در این قصرهای باشکوه پذیرای مردمانی بودند که دست به دعا برداشته با خدا صحبت داشتند، به درد و حرفهای آنها گوش فرا دادند. هر هفته در روزی مشخص برای آدمیان موعظه می و به جز آن صحبتهای همیشگی از شریعت و دیانت خدا، آنها را همیشه و همیشه به ناجی امید می دادند که ناجی در همین زودی ظهور خواهد کرد و ریشه ظلم را پاک خواهد ساخت و انسانها را خدا در قیامت مورد قضاوت قرار خواهد داد. نکته قابل توجه در زندگی این دو بخش از جامعه از روحانیون و عالمان دینی و ارباب بزرگ که به انسان‌های این دهکده حکومت می‌کردند، ایمون چون آنها کار و وظیفهشان همینها همین ها بود. ارباب اربابی کردن و عالمان دین بشارت دادن و آدمیان جز اطاعت کار دیگری نداشتند. آنها مثال دیگران کشاورزی نمی‌کردند، تولید نمی‌کردند، نمی‌فروختند. و مردم از حاصل دسترنجشان با عناوین مختلف به آنها روزی می رساندند و این جماعت در کاخهای عظیم زندگی می کردند و از رفاه بسیار بالایی برخوردار بودند و اما مردم این دهکده مردمی که به درازای سالیان قبل از ظهور این باورها نه اربابی داشتند و نه آلمان دینی که آنها را راه نمایی کند همه در یک ساعت کمی بالاتر و پایینتر در حال زندگی بودند. به جزان دو دسته، ارباب و علما در بین خودشان هم دو دسته ایجاد شده بود. هرچند که این اتفاق طی یک سال و دو سال نیفتاد و پس از ظهور این باور به درازای سالیانی با تغییرات ریز و درشت به اینجا رسید. اکنون دهکده در دل مردمانش دو دسته داشت. کسانی که صاحب نام داشتند و صاحب همه چیز بودند ثروت و مکنتشان به آلمان دینی و ارباب نمیرسید لا صاحب عرای، خانه ها،, دکان ها، و تمام دارایی های بودند. اینها را صاحب میگفتند و از زندگی مرفهی برخوردار بودند. صاحبان خانواده های بزرگی در اختیار داشتند. بعضی زنان بیشمار با فرزندان زیاد، و برخی یک زن با چند فرزند و همه اینها وابسته به خودشان و ثروتشان بود. یعنی بعضی یک زمین، یک خانه و یک زن و چند فرزند داشتن. هرچند میانشان صاحبانی هم بودند که با داشتن ثروت هنگفت یک زن اختیار می‌کردند و هنم وابسته به کرمشان بود. در مجموع تعداد صاحبان نسبت به آلمان دین بیشتر بود. اما در مقایسه با تمام اجتماع اقلیتی کوچک محسوب می و اکثریت جامعه را انسانهایی پر کرده بودند که چیزی در این جهان برای خود نداشتند. نه ملکی، نه زراعتی، نه دکانی و هیچ از مال دنیا به دست نیاورده بودند. تیه مرور سالها این جماعت بیشتر و بیشتر شد، و صاحبان هر روز قدرتمندتر و این نظم دنیای اینان بود. هر روز صاحبانی که ثروت کمتری داشتند همان اندک ثروت را از دست میدادند و به جمع بیشمار بیچیزان اضافه میشدند. اما این جماعت بیچیز برای امرار معاش و زندگی نیاز به کار داشت و مجبور بود برای صاحبان کار کند، لغمهانی به دست آورد و این شد که صاحبان کم کم به واسطه ثروت هنگفتشان یک تنو کم کم صدها و هزاران نفر از بیچیزان را در اختیار گرفتند و عراضی خیش را آبادتر تر کردند و هر روز نداران را ضعیف و ضعیف در به حس در آوردند و به ثروت خیشان افسودند و در این نظم پیش رفتند بیچیزان را به جای می رساندند که دیگر نیازمند به صاحبان بودند و شریعتی که اجازه این کار را میداد و نظامی که این دونه برای آنان تعریف شده بود. نظام قدرت و ضعف، قدرتمند و ضعیف خدا و بنده، ارباب و رعیت و سرآخر صاحب و برده این جامعه سرآخر به جایی رسید که خدای در آسمان نشسته و بندگان بیشماری داشت. اربابی وظیفه پیشبرد اهداف آن خدا بر زمین را بر عهده گرفت و پس از او عالمان و رهبران دین او را در راه پیشبرد این اهداف یاری میدادند و جامعه‌ای که به واسطه این آموزه ها خود را به دو دسته تقسیم کرده بود جماعتی که ثروتمند بودند و صاحبان نامیده میشدند و در کنار آنها بردگانی که هیچ چیز نداشتند و به آن جماعت نیازمند بودند و آرام, آرام آرام آنقدر اینان پس و آنان پیش رفتند که صاحبان صاحب بر اینان شدند و بردگان باید به عوامر آنها گوش فرامی دادند تاعت می تا زنده بمانند و کیفر نشوند و خدایی که همیشه ندای آمدن ناجی میداد تا جهان را به روزهای خوش بازگرداند صاحبان به واقع قدرتمند بودند تمام نعمات این دهجده در اختیار آنان بود تمام ثروت نهفته در خاکهایش تمام زمینهای زرایی، دکانها، همه و همه در اختیار این صاحبان بود و بردگانی که برای بقای زندگی مجبور بودند به خاصه های آنان تندر دهند عرق می ریختند. به میان کوه کوها، ها و معادن می رفتند چه بسیاری از آنها که در این راه جان دادند و در میان این معادن در خاک مدفون شدند و جماعتی که سرآخر گوهرها را بیرون آورده به صاحبان تقدیم می کردند و در ازای آن لغمه نه میجستند تا خود و خانواده های کوچکشان که در اختیار صاحبان و به ازن آنان نفس میکشیدند سیر بمانند. و صاحبانی که هر روز در رفاه بیشتر قوه میخوردند، گوهر و دورهای گرانبه ها را به دیگر شهرها و دهجدههای اطراف میفرستادند. یا به تیگر اربابان در شهر می فروختند و پول بسیار به جیب میزدند و سهمی از آن را برای ارباب بزرگ دهکده با دست میفرستادند. از اون متشکر بودند که چنین اجتماع پر از رفاه و امنیتی را برایشان ساخته بود و بخشی از این مال به دست آمده را به سوی آلمان دینی می بردند تا هم خدا را در راه بشارت انسان‌ها یاری دهند و هم گناهانشان را به واسطه این بخشش و کمک در راه خدا ببخشاید و بردگانی که در بیغوله ها و خاک و خاشاک با فرزندان سر و رو سوخت و ذر خریده ی صاحبان با زخپای بر دست و پاهایشان لغمنان خوشی در آب اونتور می و از خداوند بزرگ به خاطر نعماتش سپاس میگفتند. بعضی اوقات به درگاهش ساعت‌ها اشک می‌ریختند و با التماس و نجواکنان به یزدان عرض می‌کردند بار الها ناجی ما کی خواهد رسید کی به این جهان پا خواهد نهاد زشتی را از جهان ریشه کن کند آنان با خدا حرف می‌زدند و درد و دل می‌کردند دنیا را در آن قصرهای عالمان دین میجستند تا روز موعود برسد و بتوانند دست در دست هم به محضر خدا مشرف شوند و در برابرش به خاک بیفتند و از این جهان پسیها دوری و برای جهان زیبایی ها و آسایش آماده شوند همه جای این دهکده در اختیار صاحبان بود صاحبان قدرت و ثروت هر جا که نگاه می‌بردی، بردگانی در حال کار سخت بودند و بالاتر از آنها کمی دورتر صاحبی نشسته و پول می شمون انبارهایش را پر از غلات و گندم می و هر روز از پیش ثروتمندتر و قدرتمندتر میشد. شد عراضی کشاورزی بسیاری در این دهکده وجود داشت خاک زرخیزی داشت به گفته ی هرچه هر چه درام بکاری حتما رول میدهد و جوانه میزند از این رو کشاورزی در این خاک سود سرشاری داشت وقتی به میان این عراضی میرسیدی مردمانی جند پوش میدیدی که زیر آفتاب به سختی کار میکنند رنگ و رخسارشان کاملا دگرگون شده است. به سیاهی نزدیک شده هند. از این رو صاحبان گهگاه آنها را کاکاسیا هم خطاب می کردند آنها با تنهای سوخته اندامی لاغر و نحیف میچیدند و می کاشتند. هرست می کردند و شخ می زدند. اما کمی بالاتر در زیر سایه درختی روی سندلی زیبا مردی چاق و درشت اندام نشسته است و آرام به سیگار درمان میان انگشتانش وخمین در همین بین است که یکی از برده ها به زمین می افتد و خوشه گندمی که در دست دارد را به میان لجنزار میاندازد. و صاحب که عصبانی و پرخشم است رو به بردگان در اطرافش فریاد میزند و سراسیمه از جایش برخواسته به سمت آن مرد لاغرندام که گندم ها را فنا کرده میدود ضربات محکمی به پهلویش وارد می کند و پس از آن دست بر کمربند شلوارش میبرد آن را بیرون میکشد و مرد رنجور زیر تازیانه زج میکشد و نفس در سینه دیگر بردگان حبس شده و چیزی نمیگویند شاید این اول بار نیست که این صحنه را دیدند اما شاید مثال اولین بار برایشان درد آور باشد. و شاید چندی قبل این کار هیچگاه اتفاق نمیافتاد. اما اولین بار و این سکوت چنین پیش بود که این کارها عادتی برای صاحبان و تحمل این دردها بخشی از زندگی بردگان شده است. کتاب ناجی اثر نیما شه بخش دوم ناجی میکایل که به سختی بدنش درد میکرد توان ایستادن و بلند شدن از زمین را نداشت آفتاب مستقیم بر روی چشمانش میافتاد و چشمان را بسته بود در میان خیالهایش مردی زیبا با چهره‌ای بشاش می‌دی که صورتی نورانی داشت. ابروانی پرپشت، موهایی بلند، دماغی کوچک، و لبهای زیبا و موزون. ریش‌های یک دست که جوگندومی بود. میکائیل چشم بر چشمانش دو آرام می‌دید که به سویش می‌آید. زیر لب گفت سرورم شما؟ مرد زیباروی آرام لب گزید به نشانه خموشی میکائیل و آرام آرام به سمتش آمد در حالی که به او نزدیک میشد گفت روز پایان این دردها نزدیک است و در حالی که تازه جمله تمام شده بود دست به سوی میکائیل دراز کرد و او را از زمین بلند کرد میکائیل با تکانی بر جسمش چشمانش را باز کرد و دید داوود و دانیال زیر بغلش را گرفته و او را به سمت استبل میبرند. البته باید گفت که این استبل آن استبل دور زمان ها نبود خیلی فرق کرده بود آقا اصحاق یعنی صاحب این اراضی همان مرد چاقی که چندی پیش میکایی را به سختی ضرب و شطف کرد این استبل را از حیوانات توهی کرده و پس از آن رنگی به سر و رویش زد و چند تخت خواب به تعداد بردگان و میز سادهای برای خوردن غذاهای آنها تدارک دید این هم از رعفت و بزرگی آقا اصحاب. البته این چیزی بود که بیشتر روزهای موعود بردگان از میان قصر خدا از زبان آلمان دین میشنیدند و در کنار آن همیشه یعقوب مرد مقدس میان خانه خدا برایشان از روزگار سخت دیگر بردگان میگفت آنها را به شارت میداد که صاحب سحاق چه مرد مهربان و است هرچند که با آنها رفتار خوشی نداشت و گهگاه کتکشان میزد اما نسبت به داستانهایی که درباره دیگر صاحبان و برده ها میشنیدند صاحب سحاق مرد خوب و درست کاری به نظر میرسید. در حالی که میکایل به سختی از درد بدن می دانیال و داوود او را به روی تختش بودند و آرام خواباندند داوود که خیلی کلافه و عصبانی بود فریاد زد این نمک به حرام زندگی را برایمان زهره زهر مار کرده دانیال به او اشارتی کرد و گفت آرام باش این چه حرف است که میزنی؟ او صاحب ماست اگر این حرف ها را بشنود سرانجام بدی در انتظار توست در میان همین حرف ها بود که میکائیل بار دیگر چشمانش را بست و در آرزوی دیدن مرد زیبا رو به انتظار نشست اما این بار چیزی در برابرش ظاهر نشد با اینکه درد بسیار داشت از خستگی زیاد به خواب رفت خیلی سخت کار میکرد از صبح تا شب در میان عراضی در حال زحمت کشیدن بود و تمام روزش را صرف کندن و چیدن و شخم زدن و زراعت در این مزرعه میکرد. کم میخوابید. هرگاه که از کار فارغ میشد به اتاقشان میرسید و زمانی را با سارا همسرش میگذراند. هرچند همه در یک اتاق ساکن بودند اما روابط او و همسرش در این اتاق چند نفره هم آشقانه بود. خیلی به هم احترام میگذاشتند و آشقانه با هم سخن میگفتند و سرخر میخواهید دست به دعا می شد، شب را تا صبح بیشتر اوقات دعا می کرد با خدا سخن میگفت و همیشه از آن داشت زمانی که با خدا خلوت میکند آرامش میگیرد. از این زمین خاکی دور می شود و به آسمان اروج می کند و عاشق این لحظات از زندگیش بود. و حال به واسطه این کمخوابی ها و کارهای سخت امروز، حتی با وجود دردهای بسیاری که به تن داشت، آرام به خوابی امیق فرو رفت و چندی بعد، دانیال و داوود از اتاق بیرون رفتند تا به کارهای روزانهشان مشغول شوند و او برای زمانی هم که شده به آرامش برسد. آنها اخلاق صاحب اسحاق را خوب میشناختند، او مردی سختگیر بود و اولویت اصلیش در زندگی کار کردن و اندوختن ثروت بود. هیچگاه نمیگذاشت که بردگان از زیر کار در بروند و همیشه آستانه صبرش آن زمانی از دستش در می‌رفت که برده‌ای از زیر کار در رفته و یا مثل امروز میکائیل به او ای مالی زده باشد از این رو بود که دانیال و داوود به سرعت از اتاق خارج شدند اما همین که از اتاق بیرون آمدند با چهره در هم رفته و اخم‌های تو در توی اسحاق روبرو شدند چگویی انتظارشان را می‌کشید ترس تمام وجود دانیال را گرفته بود و در دلش صد بار نام خدا را یاد کرد خازانه از او می‌خواست که حرف‌های چندی پیش داوود را صاحب اسحاق نشنیده باشد اما در برابر خود داوود همچنان خونسرد بود و چیزی از خود بروز نمی‌داد فقط مشتهایش را گره کرده و گویی در انتظار فرصتی است در همین حال دانیال محکم دستش را گرفت دست سرد دانیال وقتی به دستهای داوود خورد صورت برگرداند و به صورت سفید شده دانیال چشم دوخت و تازه به خاطرش آمد که چرا دانیال تا این حد مستره است. در حالی که با سر اشارتی برای دانیال داد تا از استراب او بکاهد صاحب اسحاق به او ضربتی زد چیزی شبیه به هل دادن آنقدر قوی نبود تا هیکل تنومند داوود را تکان دهد داوود هیکل درشتی داشت پوست صورتش مثال دیگر بردگان به واسطه یه کار کردن زیاد زیر آفتاب سیاه بود موهای صاف و کوتاهی داشت با چشمانی درشت و شاید تمام وجودش می شده و دیگر تحملی در جانش نمانده دست مور شده را سعی کرد که بالا بیاورد دانیال با تمام توان از این کار او جلوگیری کرد و در همین حین و حال صاحب اسب فریاد زد بی عرضه ها کجا مانده چرا اینقدر لفتش دادید مگر به شما نگفته بودم که از زیر کار در رفتم بدم میآید آن مردک را میانداختید و زودتر باز میگشید به آن تنلش هم گوست کنید که فردا صبح باید سر کار باشد در غیر این صورت جیره غذای خودش و همسرش را قطع خواهم کرد و امشب هم از غذا برایشان خبری نیست این هناغی که شما میخورید از پس همین کار کردن هاست من پول مفت ندارم تا شکم شما بی وجودان را پر کنم زود به سمت کارهایتان برگردید در حالی که وجود داوود مالامال از خشم بود می که بلند فریاد بزند خیلی زودتر و به سرعت دانیال گفت چشم ارباب و به سرعت دست داوود را گرفت و به سوی ارازی کشاند. به واقع که زمین های بزرگی بود. در این دهکده بزرگترین ارازی کشاورزی در اختیار صاحب ها بود. او یکی از ثروتمندترین مردان دهکده به حساب می‌آمد. در طول بهار و تابستان به کشاورزی در زمینهای بیشمار و بزرگش بردگان را به کار میگماشت و در پاییز و زمستان این محصولات انبار کرده و دیگر کالاهای تجاری که از این سو و آن سوی جهان میآورد را به دست بردگان در میان بازارهای شرح میفروخت و با این کار هر روز بر ثروتش میافزود و شاید از دید برخی او من ترین مرد دهجده به حساب میآمد او به همراه خانواده اش در میان املاک انبوهی که همه در یک خطه جمع شده بود زندگی کرد و به واسطه این تعدد اراضی و مایملک این بخش از دهکده به قلمرو اسحاق معروف بود. بردگان بیشماری داشت، طویله و خانه های کوچک بسیاری در آن فراهم کرده و به زور بازوی این بردگان بر ثروتش میافزود. یکی از حرفهایی که در دهکده بین مردم رواج داشت این بود که اسحاق به واسطه داشتن تعداد بیشمار بردگان حتی تعداد آنها را هم نمی‌داند، چه برسد به نام و این یکی از خصیصه های اخلاقیش شده بود که نام هیچیک از برده ها را به زبان نیاورد و همیشه آنها را برده خطاب کند و البته دیگر القاب که روی هر کدام از آنها به واسطه برداشتش از خصوصیات ظاهری آنها میگذاشت، و آنها را با نامهایی خاص خطاب میکرد. اما با این وجود او ظالمترین صاحب در این دهکده به شمار نمیآمد، و برای بردگانش خانههایی هر چند از های پیشین ساخته و به آنها سر وقت غذا میداد و تا حدی به نیازهایشان رسیدگی میکرد و فقط زمانی آنها را راکتک میزد که از زیر کار در میرفتند و در انجام وظیفه هایشان کوتاهی می کردند و خلاصه که به منفعتهای او ضرری میرساندند. اینها در برابر دیگر بردگان که در دهکده نقل میکردند، فلان ارباب، گهگاه برای تفریح و سرگرمی خود و خانوادهاش ما را داغ می کند و به سختی کتک می زند در برابر چنین تعریفی صاحب اسحاق چهره بهتری به خود می‌گرفت صاحب اسحاق در میان قلمرو بزرگ و بیدر و پیکر قصری بزرگ داشت مشرف به تمام نقاط قلمرو به زیبایی تمام کاخهای شهر نبود مثل قصرهای پیشوایان دینی و صد البته ارباب بزرگ شهر لکن خانهاش یکی از زیباترین قصرهای دهکده به حساب می‌آمد ایوانی بزرگ و سفید رنگ که گل از دو سمت به رنگ تلایی داشت پنجره بزرگ و طویل که از سخف تا زمین را می پلههایی که به درب ورودی این کاخ اشرافی می رسید دربی با مجسمهای به شکل شیر برآمده به عنوان دستگیره، وقتی وارد عمارت می شدی پرده های بلند و اشرافی تلاکوب تو را مجزو خود می کرد و زمینی که همیشه برق میزد و می درخشی. از شمار فراوان بردهها بیشتر زنان به داخل امارتش کار می کردن. از نظرش زنها برای کارهای خانه مناسب تر بودند و این شمار بسیار وظیفه داشتند از صبح تا شام خانه را پاکیزه و تمیز کنند و وای از آن روزی که چشمان تیزبین صاحب ساق لکهی در خانه می دید. آن وقت بود که روزگار این جماعت تیره و تار می شد. از این رو بود که همیشه خانه برق میزد و پاکیزه بود راهروی بزرگ در میان خانه چشم نوازی می کرد بیشتر طبقه پایین به جز آشبس بزرگ که مسئول پختن غذای شاهانه برای اسحاق و همسرش و پختن غذایی بسیار برای سید بیشمار بردگان داشت سالونی بزرگ و زیبا نیز در این بود که در گوشه ای از آن میز بزرگ نهار خودی چوبی چشم نوازی می کرد. و باقی سالن را موبهای سلطنتی، میزها و وسایلی لوکس و عتیقه پوشانده بود اما میان این سالن بزرگ در گوشه چسبیده به دیوار انتهایی شی از عکس‌های مختلف مانند آلبومی بزرگ بر دیوار خود نمایی می کرد. این دیوار که از همه سوی سالن قابل رویت بود عکس بزرگی از ارباب بزرگ دهکده در سراغازش داشت کمی پایینتر، تمثیلی شبیه به پیامبر دورترها و کنارش عکس پدر و پدران اسحاق جا گرفته بود این آلبوم بزرگ بر دیوار بر این امارت با جلال جلال چند بار داده بود خواب عکس ها مزیم به هنر کندکاری شده بود و نمایی سکچندان به عکس درون خود میداد. آن پله های عریض و طویل ما را به طبقه بالایی این امارت می رساند که سر تا سرش را اتاقهایی مجلل پر کرده بود یکی اتاق کار اصحاق یکی اتاق خواب او و همسرش یکی اتاق میهمان و صد البته بسیاری اتاقهای دیگر که زیبنده تمام این اتاقها اشیای لوبس و عتیقه میان آنها بود و به زیبایی آنها افسون میکرد. گاه به شکل تمثیل و مجسمه گاه به شکل گلدانهایی بزرگ و زیبا گاه فرشهای دست باف و بارها. اما چیز دیگری که این امارت را به یاد ماندنی تر می کرد خوش شده از حیوانات بود این صورتک های شده در جای جای این امارت به چشم خوب و ازها آن مرد چاق و کمو که انبوه سیویوی بر پشت لب داشت هرگاه مهمانی به خانه می‌آمد از داستان شکار یک به یک صورتک ها برای آنها قصه های طول و درازی تعریف می و اما در کنار همه اینها همسری که زندگی را برای او دو نفره کرده بود زنی میان سال بود با موهایی تقریبا سپید دور از ذهنو که در این سن و سال چرا چنین رنگی یک پارچهی به خود گرفته است قدی بلند و هیکلی خوش دراش همراه با صورتی زیبا آدمی را وادار می کرد تا بران چندی خیره بماند اما در کنار اینها روحی افسرده و نالان داشت بسیار کم حرف میزد. نامش پرنس بود شاید تنها زمانی که او احساس خوشی می کرد زمانی بود که نامش را صدا می و متکبرانه پاسخشان را می داد. در تمام طول روز افکار ریز و درشت بسیاری به سراغش می آمد و او را هماره آزار می داد. از نخستین روزها اینگونه آرام نبود و شاید زندگی طولانی در کنار اسحاق و نداشتن فرزند او را تا این حد زمینگیر و افسرده کرده بود و اصرارهایش برای آوردن فرزندی از دیگران هیچگاه اسحاق را راضی نکرد و او پشمرده و تر شد لیکن اسحاق و پرنس به درازای این عمر در کنار هم زندگی کردند و هیچ کدام راضی به جدایی و ازدواج با دیگری نشدند اسحاق با تمام ثروت و مکنت زندگی را در کنار او خوش دید و از این با هم بودن لذت برد سارا وقتی خبر را از دیگر زنان خدمتکار شنید هر آسان از آشپزخانه بیرون رفت پله ها و پس از آن مسیر را با تمام توان دوید خودش را به سرعت به میکایل رساند نمیدانست چه اتفاقی افتاده فقط کلمات زن را دوباره در ذهنش دوره کرد زن گفته بود صاحب اسحاق میکایل را کتک سختی زده نمی توانسته که روی پاهایش بیستد در حالی که به این حرف فکر میکرد زیر لب نام منجی را به زبان آورد و با تمام توان راه را پیش برد و سراخر به بالین میکائیل رسید میکائیل روی تخت خوابیده بود وقتی سارا او را در این حال دید به سرعت نزدیکتر رفت او را تکان داد حتی یک بار هم فکر نکرد شاید خواب باشد میخواست با او حرف بزند میخواست با نفسهایش آرام شود. میکائیل چشمهایش را باز کرد و لبخنی به سوی همسرش روانه کرد و سارایی که آرام شد دوباره تمام زشتی ها و آن همه نگرانی را به گوشه ای انداخت و بوسه بر نبان مرد زد در حالی که آرام زیر گوش میکائیل میخواند که دوستش دارد زمین و زمان را از خاطر بود بعد از یک روز سخت کاری دیگر همه خسته به سوی منزلگاهشان پیش بودند. بردگانی که به طول روز به سختی کار کرده حالا میخواستند که در گوشه‌ای آرام گیرند تا فردا آن همه کارهای باقیمانده را به انجام برسانند. وقتی وارد اتاق شدند دیدند میکائیل اتاق را تمیز و مرتب کرده. با اینکه در تنش هنوز احساس درد داشت اما به واقع توان دراز کشیدن و درجاماندن را نداشت نمی توانست آرام بگیرد می گفت از روزی که چشم گشودم کار کردم و کار نکردن خیلی بیشتر خسته ام می کند و امروز هم با تمام درد اتاق دوستان و همدردانش را تمیز و پاکیزه کرده بود آنها بی توجه یک به یک وارد شدند تا اینکه داوود گفت بدبخت امروز هم نتوانستی استراحت کنی؟ میکائیل پاسخش را با پوسخنی داد و سارای که به سمت میکائیل رفت و گفت چرا این کار را با خودت کردی ما خودمان انجام میدادیم و سر همه دور میز جمع شدند به دستور اسحاق امشب دو ظرف کمتر غذا به اتاق فرستاده بودند تا سارا و میکائیل را تنبیه کنند ولی داوود قبل از اینکه این موضوع را دیگران بفهمند دو ظرف اضافه کرد و با محتویات کمی غذا از هر ظرف آن را پر کرد و به سر میز آورد و همگی به دور میز مشغول خوردن شدند در همین بین داوود لب به سخن گشود و گفت باید جواب این حرامزاده را می دادیم تا این گونه با ما مثل حیوان رفتار نکند این بیشرف هر چه دارد از صدق سر کار کردن ماست دانیال ضربه ای از زیر میز به پایش زد تا خاموش شود در حالی که چهره داوود کمی عوض شده بود دست به زیر میز به سمت پایش برد تا جای ضربت را بمالد در همین هنگ رو به دانیال گفت چه می کنی؟ چرا هر وقت حرف میزنم اینگونه مرا خاموش می کنی؟ از چه میترسی؟ دانیال که باز رنگ از رخسار باخته بود با اشارت چشم و ابرو به داوود فهماند که ساکت شود ناگهان میکایل گفت بگویید امروز چه کسی را دیدم همه متعجب شدند میکایل ادامه داد امروز سرورمان را دیدم همگی گی مشتاقانه به لبهای او چشم دوختند و میکائیل این گونه به سخن ادامه داد امروز وقتی صاحب مرا میزد وقتی چشمانم را بستم چهره معصوم و قدسی سرورمان در برابرم بود آرام نزدیکم آمد نگذاشت با او سخن بگویم سارا مشتاقانه پرسید چه به تن صورتش چگونه بود میکایل رو به سارا گفت مثال ماه درخشان بود با صورتی زیبا و دست نیافتنی وقتی به سوی آمد دست دراز کرد و مرا از زمین بلند کرد و آرام گفت روز رهایی نزدیک است من به زودی ظهور خواهم کرد جماعت با چشمانی پر اشک به لبهای او چشم دوخته بودند و منتظرش بودند منتظر دیدنش منتظر سخن گفتن با او در همین میان داوود از سر سفره برخاست و گفت من میخوام بخوابم. در خوابم درزه میکایل. اسحاق دستور داده تا فردا به سر کار بیایی گفته اگر سر کار نباشی تو و همسرت را تنبیه خواهد کرد صحبت داوود، داود افکار جمع را برهم زد و بعد از رفتنش یک به یک از سر میز در حالی که غذایشان را تا آخر نخورده بودند بلند شدند و به سوی تخت خوابهایشان رفتند هر هفته در روزی خاص مردمان این دهکده در قصرهای خدا جمع می شدند و با او سخن و دعا می میکردند. در این دهکده کوچک قصرهای زیادی برای خدا وجود داشت تا آدمیان ساکن هر کدام از نقاط در روز معود برای زیارت خدا به این قصرها بشتابند معماری همهشان یک شکل بود تنها تفاوتشان بزرگی و کوچکی آنها بود اما در زیبایی و جلال و جبروت با هم فرق چندانی نداشتند های بلند آویزه ها و تمثيل ها خطوط و های بسیاری بر دیوارهایش وجود داشت و محرابی در پیش تا عالم دینی بر آن برای انسان ها موعظه کند آنها را بشارت دهد و به راه راست هدایت کند این غاصهای بزرگ خدا بر زمین تنها جایی بود که در آن صاحبان و بردگان کنار هم می نشستند و خدا را پرستش می‌کردند مخالفت‌های زیادی از سوی صاحبان در باب این موضوع مطرح می شد که باید جای این دعا و سناها را تغییر دهند تا صاحبان به خانه ای مجزا و بردگان در سرایی دور از آنها به پرستش خدا مشغول شوند اما این ها راه به جایی نمیبرد نه ارباب بزرگ و نه علمای دین هیچگاه به این امر راضی نمیشدند شاید یکی از دلایل بزرگی که باعث شده بود صاحبان خیلی کمتر در این مراسم حضور یابند همین بود شاید به جرأت میشد گفت همهٔ بردگان در این ایام خاص به خانه خدا میآمدند و مناسک مذهبیشان را به جا می آوردند. اما تعداد کمی از صاحبان در کنار آنها حاضر می شدند و تعداد بیشتری از آنها چند صباهی بود که هیچگاه نمی آمدند و همینها شاید بیشتر از پیش جرقه ای بر دل بردگان می زد و آتشی روشن می کرد که صاحبان خدا ترس نیستند و پروردگار آری از زشتی آنهاست امروز هم یکی از همان روزها بود دانیال و داوود و سارا و میکاییل و دیگر بردگان قلمرو اسحاق به پیش رفته و در خانه خدا حاضر بودند. برخلاف دیگر صاحبان اسحاق همیشه در این روز خاص خودش را به خانه خدا می رساند. ساعتها در کنار روحانیون مشغول پرستش خدا می شد. خانه خدایی که نزدیک به قلمرو او بود گوهر پاس نام داشت. این خانه جایی بود که هر هفته در روزی مشخص تمام بردگان او را در خود جای می داد. مرد روحانی و پیشوای بزرگ دینی که در این خانه خدا مشغول خدمت بود مردی به نام یعقوب بود. مردی با ریش بلند و سپید و چهره همیشه زاهدانه جماعت بردگان وقتی یعقوب را در برابرشان میدیدند که چگونه دست بر سرشان میکشید و گاهی بر دستانشان بوسه میزد او را قدصیترین و شریفترین انسان زمین میدانستند با تمام وجود عاشقش بودند و هر روزی که به خانه خدا می‌آمدند، تمام مشکلات را به كناری میزدند و ساعتها به صحبتهای یعقوب گوش میدادند و یعقوبی که به درد و دلهایشان گوش میداد و با آنان همدردی می کرد و گهکاه با ناله آنان اش در چشمانش جمع می‌شد و به آنها امید می‌داد و آنگاه که لب سخن از ناجی می جماعت پردرد سر و پا گوش می شدن. آنگاه که یعقوب از شمائل منجی می از عظمت و بزرگیش از سبر بیکرانش که چگونه در تمام این سالها در انتظار ظهور و امر خدا نشسته و به سختی گریه می کردند. یعقوب که اش در چشمانش جمعی شد از روزهای خوش در پیش سخن میگفت برایشان از روزی صحبت می کرد که منجی از میان چاهی سربرون برون می آورد و تمام زشتی ها را از میان برخواهد خواهد داشت اینجا بود که جماعت دوباره و بیشتر از گذشته عشق می ریختند و آرمان و آرزوهایشان را با منجی و ظهورش گره می زدند. باز هم یعقوب در ساعت‌های زیادانان را بشارت می‌داد، پند و اندرز می‌کرد، از زشتی ها می‌گفت، حق دیگران را پایمال کردند، ظلم به دیگران، همه و همه را از این زشتی‌ها می داشت و سرآخر سخن را به آخرت میرساند. از منجی گفته بود و حال باید از پروردگار بزرگ جهانیان می‌گفت. از روزی که آخرت بر پا خواهد شد و حق مظلومان از ظالمان گرفته می شود و آنها می گفت توچه برای فردا و جهان آخرت جمع کنید از نیه باشید این جهان فانی و زود گذر است اما جهان در پیش رو جهانی باقی است و برتر است کارهای خوب بکنید بدانی که در آن جهان انسانها بر اساس اعمالشان قضاوت خواهند شد نه ثروت و صاحب و برده بودن و این آنها ها را به راه خدا بشارت میداد. سرآخر این مراسم هر کدام از مؤمنان کاغذی به دست می‌گرفتند در دو دل و آرزوها هرچه و هرچه که میخواستند از آن با منجی سخن بگویند را روی همان کاغذ مینوشتند. این یکی از بخش های مناسک مذهبی بود طبق روایتی از دور که منجی در آخر زمان از میان چاهی ظهور خواهد کرد همه در پیش در برابر چاهی که هر کدام از این خانه های خداداش پیش می رفتند. آرزوهای به دل داشته که روی کاغذ نوشته بودند را در دست و فریادهای یعقوب در گوششان تنین انداز بود منجی همه جا هست همه چیز را می بیند سر به هر جا که بخواهد می تواند برد او از آرزوهای شما با خبر است. در حالی که اشک در چشمانشان حلقه میزد آرزوها را به میان چاه میانداختند با دلی آرام دردهای تسکین یافته از صحن و محضر خدا دور میشدند تا هفتهی تازه را آغاز کنند وقتی همه بردگان از سحن خانه خدا بیرون رفته بودند این اسحاق بود که با کیسه در دست به سمت یعقوب پیر آمد. از او میخواست تا شفاعتش را نزد خدا ببرد و او را بیامرزد. و آن کیسه پر از زر را به یعقوب میداد و در حالی که از درب خانه خدا خارج میشد زیر لب نام خدا را ذکر میکرد. و به سونگ قلم در پیش بود کتاب ناجی اثر نیما شهسواری بخش سوم بیداری باز هم هفتهای تازه آغاز شده بود دانیال و داوود میکائیل و دیگر مردان به سختی در مزاره مشغول کار بودند و سارا به همراه دیگر زنان در قصر صاحب ساق به سختی کار میکرد قصر مثل همیشه فضای سردی داشت و اسحاق بیشتر روز را خارج از عمارت می‌گذراند و معدود زمانی به درون قصر می‌آمد عادت هر روزش این بود که به میان مراتع و مزارع برود و کار کردن بردگان را به نظاره بنشیند با نگاهی بر آنان سیگاری و لب بگذارد و دود کند و در میان این کار کردن‌ها دنبال خطایی از جماعت باشد و بردگانی که با دیدن او بیشتر از پیش کار می کردن. سخت تلاش می تا خطایی از آنان سر نزند که مورد خشم صاحب ساق قرار گیرند امروز وقتی همه بردگان به سختی مشغول کار بودند یکی از دوستان اسحاق و دیدارش آمده بود در کنار مزرعهی که بردگان بیشماری در حال کار بودند دو صندلی و سایبانی علم کرده و بردگانی آن دو را باد می زدند چای می و درباره مسائل دهگده و بحث های شخصی حرف میزدند. روس صاحب ساک گفت: رفیق میدانی ارباب چه کار کرده؟ و دهگده های اطراف توافق کرده تا آسانتر کالا برای هم بفرستید و این دریچهای تازه برای ما باز خواهد کرد اسحاق در حالی که با اشاره سر به حرفهای او پاسخ می‌داد و چیزی از حرفهای او نشنیده بود با نگاهش به میان مزرعه کار کردن بردگان را زیر نظر گرفته بود و بیشتر نگاهش متوجه داوود بود مطابق معمول نام کسی را نمی اما او را خوب به خاطر سپرده بود و همیشه او را غول بیابانی خطاب می کرد به دوستش گفت این برده ها هم حسابی از زیر کار در می روند و دل به کار نمی دهند مثالش همین قول بیابانی به اندازه سه و شیرده قضا میخورد خورد اما ذرهای بخار ندارد و مسخالی شرف در وجودش نیست نگاه کن چگونه کار می کند دوستش گفت باید با آنها مهربانتر باشی خیلی اوقات مهر و محبت و پاداش از شوبه بیشتر جواب می دهد. اسحاق به میان صحبتش آمد و با لحنی تمسخرآمیز گفت این سیاستی که تو پیشه کردی دوستش سرش را پایین انداخ و سیگاری روشن کرد. چند زمانی بود که او در غرز و شدید افتاده بود بسیاری از عراضیش را فروخته و بردگان بیشماری از دست داده بود و چیزی برایش باقی نمانده جز همان خانه کوچک و زمین بسیار اندکی که دو برده به سختی در آن کار می‌کردند در دهکده درباره او اینطور میگفتند که بیشتر ثروتش را در راه قمار از دست داده و برخی که از محبت سرشارش نسبت به بردگان میسراییدند این عامل را باعث شکستهایش میدانستند. دوست اسها رو به او با نگاهی ملتمسان و لحنی دردمند گفت رفیق پول داری تا کمی به من کمک کنی برای برداشت و فروش محصول امسال به مشکل برخوردم اسحاق با لحن آمرانهی گفت اگر مشکلت برداشت محصول و فروش آن است می توانم بردگانم را به آنجا بفرستم محصول را هم برایت بفروشم ولی رفیق باید از همین الان بدانی که سهمم را از این کار خواهم خواست دوستش آرام گفت نه در حقیقت مقداری پول کم آوردم و مغروزم باید آن را باز پس هم و با این پول میخواهم برای امسال حداقل در کار دیگری سرمایه گذاری کنم و شرایطم را بهبود بخشم اسحاق گفت باشد کمکت می فقط سند زمین و خانه را در گرویم بگذار تا یک سال دیگر این پول را به من پس بده این سنت دیربازی بود که میان آدمیان دکده راه افتاده بود یعنی یکی از عوامل اصلی این نظام و این بردهداری موجود در این خاک همین اتفاقات بود. آن زمان‌ها که لفظ صاحب و برده وجود نداشت، همه دارای ملک و املاکی بودند. اما بدین گونه کم کم آدمیانی که دارایی خود را از دست میدادند ندار میشدند و پس از چندی برده و صاحب به میان آمد. و شاید تا چند سال دیگر دوست صاحب اسحاق هم به جمع بردگان میپیوست دوستش پس از صرف چای در حال بدرود گفتن از اسحاق بود که به یک باره صاحب اسحاق عصبانی و پریشان به سوی مزرعه رفت. با چوب دستی که در کنارش بود به سمت داوود در راه بود و داوود که پشتش به او و در حال نوشیدن آب از آمدن او بی خبر بود. ناگاه اسحاق با ضربه ای به پشت گردن داوود او را به زمین انداخت و بلند بلند فریاد زد که ای قول بیابانی به اندازه سگا و شیرده غذا می خوری حرام زاده تو حتی به اندازه یک خر هم نمی توانی کار کنی برای تفریح و پیکنیک به اینجا نیامده ای آمده ای تا کار کنی در حالی که این جملات را با فریاد به داوود می گفت همه بردگان به دور آنها جمع شدند و دانیال و میکایل هم خود را به صفحه اول رساندند داوود با ضربه محکمی که به گردنش خورده بود توان چندانی در جان نداشت اما باز هم با تمام تلاش آرام از جای برخاست در همین بین اسحاق با عصبانیت بیشتر ضربه دوم را بر سر او کوفت و داوود نقش بر شد در این بین اسحاق فریاد زد از صبح کار کردن تو را زیر نظر گرفتم همش از زیر کار در می‌روی یک بار به بهانه آب خوردن یک بار به بهانه دستشویی، یکبار یک بار به بهانه درد و زهر برخیز و درست کار کن وگرنه گرنه به طویله برمت که در کنار دوستانت بخوابی به بزرگی خداوند قسم اینقدر تازیانت خواهم زد تا آدم شوی یا بمیری داوود پس از خوردن آن ضربت دوم به سرش در حالی که از شقیقه اش خون به زمین میری بی حال افتاده بود اسحاق دوباره چند ضربت دیگر با چوب به تن و بدنش زد هیچ کدام از بردگان جرئت نداشتند جلوی این ضربات را بگیرند که سرآخر دوستش دستش را گرفت و گفت آرام باش اسحاق او که کاری نکرده اسحاق با عصبانیت فریاد زد تو دیگر سخن نگو رفتارهای امثال توس این حرامزاده ها را پررو کرده اینقدر برده آزاد کردی که به این خاک سیاه نشستی این از سابقه به دور بود که دو صاحب در برابر برده ها با هم این صحبت کنند. دوستش آرام با سری پایین از پیش آنها رفت و از آنجا دور شد. اسحاق در حالی که داشت از سطح مرتع دور میشد با فریاد گفت قول بیابانی همین حالا بر خیزی و به کارت مشغول میشوی شوی وگرنا به خدای احد و واحد همان که گفتم را به روزت خواهم آورد. این را گفت و از آنجا دور شد. دانیال و میکایل به سرعت به سمت داوود رفتند داوود که خون از پیشانیش میریخت و تمام بدنش درد میکرد توان زیادی برای حرف زدن نداشت و در همین میان دانیال گفت دیدی چه کار با خودت کردی برادر؟ چرا لجبازی میکنی؟ صاحب را نمیشناسی؟ او از زیر کار در رفتن بیزار است در میان صحبتهایش در حالی که تکه ای از جامعش را پاره کرده و با آن خون صورت داوود را پاک می کرد میکایل گفت خدا با ماست ناجی ما سرور و سالار ما به زودی ظهور خواهد کرد و داد ما را از این ظالمان باز پس خواهد گرفت در بین صحبتهایش دانیال بلند گفت صاحب مرد بزرگ و دینداریست است نمی بینی که هر دفعه به خانه خدا می آید عشق می ریزد در بین همین صحبت ها بود که داوود حالش به جا آمد سراسیم از میان دستهای آن دو برخاست و از آنجا دور شد به کمی دورتر از مزرعه رفت کمی بالاتر از آنجا به پشت درخت تنومندی ایستاد با آن هیکل بزرگ و مردانهش عشق میرید حق حق می کرد و به آسمان چشم دوخته بود فریاد زنان به خدا می گفت خداوندا، ای بزرگ مرتبه ای صاحب تمام دنیا با تمام وجود دوستت دارم. به تو ایمان دارم آرزویم در کنار تو بودن است. خداوندا از تو چیز زیادی نمیخواهم. هرگز دوست ندارم که صاحب شوم. میدانم صاحب بودن زشتی به بار خواهد آورد. میدانم تا چقدر مرا شبیه این دیف سفتتان خواهد کرد. اما بارلا ها از تو آزادی طلب می کنم. نمیخواهم برده باشم. دوست دارم آزاد در زمینت زندگی کنم. خداوندا دوست دارم خودم بر زمین خیش کار کنم و حاصل دسترنج خودم را بخورم بارلاها آزادی می‌خواهم خداوندا ناجی کی به زمین ظهور خواهد کرد آیا صدای ناله های مرا نمیشنود؟ مگر او نیست که آزادی به ما فدی خواهد داد خدایا صدایم را نمیشنود در میان چاه خفته است مگر یعقوب نمی گفت می شنود و منتظر ازن توست آیا تو هم می نمیخواهی نمی مدد به ما برسانی او در انتظار اذن توست خدا یا کمک من کن داوود در حالی که اشک می ریخت یک ریز نام خدا و ناجی را فریاد می زد و نایهان از گوش رفت و پشت همان درخت افتاد صاحب ساق با اعصابی پریشان به سوی عمارتش در پیش بود. خیلی به ندرت پیش می آمد که در این ساعت از روز به خانه برود. در حالی که به سالن خود را به سمت دیوار رساند، در برابر عکس ها به زانو نشست و دستهایش را رو به آسمان کرد. زیر لب دعایی خواند. با اعصابی خراب به تمثیل پیامبر چشم لوخت و چندی بعد پرنس در کنارش بود. به او چشم چش‌بلوخته بود. و بی هیچ کلامی فقط نگاهش میکرد اسحاق گرمای تن او را در کنارش حس کرد برگشت رو به پرنس گفت به کنارم بیا تا با هم کمی صحبت کنیم پرنس آرام به کنارش آمد و همانند او نشست در حالی که اسحاق آرام دستانش را به سمت پرنس میبرد گفت اینها مرا دیوانه کردند آخر در همین امارت مرا خواهند کشت باید امروز پیش یعقوب بروم. باید با او صحبت کنم از او چاره‌ای بخواهم یعقوب هم ناکارامد شده امروز باید مقداری پول برای بخشش گناهانم به او بدهم و از او طلب کنم تا بیشتر در موعظاتش از باب کار کردن و ثوابی که در کار کردن است با اینها سخن بگوید این, این موعظه‌های گاه و بیگاه او در باب منجی را نمی‌توانم بفهمم چرا او تا به این حد زمان گرانبهای خود را صرف این مسائل می‌کند آیا ما به دنیا چیز دیگری میخواهیم؟ آیا پیشرفت ما با این موضعها عملی است؟ آیا کار کردن این برده ها باعث نمیشود تا زندگی بهتری در دنیا بسازیم؟ مگر پیامبر والا مقام تا این حد از کار کردن و ثوابش نگفته بود؟ مگر نه اینکه تمام اینها کلام خدا بود و ایشان فرمودند در زندگی مفید باشید و کار کنید؟ پرنس فقط حرف‌های اسحاق را شنید و هیچ کلامی به زبان آورد. وقتی دستان گرم اسحاق را بیشتر بر دستانش لمس کرد، به سرعت دستش را کنار کشید. اسحاق توجه به کردار او ادامه داد. باید از او بخواهم تا بیشتر در این موارد با بردگان صحبت کند. آنها از او بیشتر حساب می‌برند و حرف‌هایش بیشتر تأثیر بر آنها خواهد گذاشت. به ارباب هم باید شکایت ببرم. تا او هم با آلمان دین صحبت کند مگر این پول ای که به می میدهیم از همین کار کردن درست برده ها نیست اگر آنها از زیر کار در بروند دیگر محصولی باقی نمیماند تا ما بتوانیم از برکتش به ارباب هدیه ای بدهیم پرنس به تصویر روی دیوار که از جدس ها بود نگاه میکرد چهره او خط و خطوط صورتک میان عکس را با اسحاق مقایسه می کرد و سرآخر از مقایسه این رو میفهمید که چقدر آنان شبیه همند. اسحاق در حالی که از جا بر می‌خواست نگاهی به پرنس کرد و وقتی دید او باز هم ساکتمان به بدون گفتن چیزی از امارت خارج شد. داوود هنوز هم پشت درخ افتاده بود. ساعتی از رفتن او میگذشت، دانیال و میکائیل تمام وجودشان اضطراب بود که داوود کجا مانده است. وقتی دیدند صاحب آنجا نیست، بران شدند تا در پی جسن او باشند و همان راه مستقیمی که داوود پیش گرفته بود را دنبال کردند. آنقدر رفتند تا از مزرعه بیرون شدند و درخت تنومند حواسشان را به خود جلب کرد. وقتی در پشت درخت داوود را دیدند، میکائیل به سرعت خودش را به بالین او رساند و سرش را روی پایش گذاشت. چند ضربه آرام به صورتش زد تا به هوش بیاید اما تکانی از او ندید حراسان بود نمیدانست چه بلایی بر سر داوود آمده در همین حال بود که ناگهان دانیال مقداری آب را که همراه داشت به صورت داوود ریخت وقتی به هوش آمد گفت خدا میکائیل سرش را در آغوش گرفت و گفت آری خدا از هیچ نهراس خدا با ماست در آغوشش گریه کرد چندی بعد او را به درون کلبه بردند تا آرام و سرحال تر شود بعد از این اتفاق و آن روز داوود خیلی آرام و بی سر و صدا شده بود. کم حرف می زد. هر روز صبح که به سر کار می آمد به سختی مشغول کار می شد هر از چند گاهی دانیال و میکایل به سمتش می رفتند با او حرف می زدند و یا سخنهای خندداری می گفتند تا حال و هوایش عوض شود اما داوود توجهی نمی شد. این بیتوجهی های او باعث شد تا آن دو هم بیشتر به کار خود مشغول شوند و کم کم شرایط به حالت عادی و سابق بازگردد. با این تفاوت که داوود آن داوود سابق نبود از شور و حرارتش کاست شده بود دائم در حال کار کردن بود و اسحاق در طول تمام روز به کار کردن برده ها نگاه میکرد. پس از آن روز توجهش بیشتر به داوود بود. بیشتر او را زیر نظر میگرفت. از کار کردنش حیرت می کرد سرآخر میان بردگان گفت: چه کسی میگوید چوبتر راه بر نیست دیدید که قول بیابانی چگونه با همین چوب تر سر به راه شد و بیشتر به کارش ارزش گذاشت حالا یکی از بهترین بردگان ماست همه شما میدانید که صاحب اسحاق هیچ کار نیکی را بی پاسخ نخواهد گذاشت اسحاق در کنارش کلمنی پر از یخ بود دست به داخلش بود و بطری از شربت گوارا به سمت داوود برد و گفت این پاداش خوب کار کردن توست از همان شرابی می نوشی که صاحب اسحاق نوشیده است بطری را به دستش داد و از آنجا دور شد داوود بطری را به دست گرفته چهرهش برفت و در همین حال بود که با فشار مکنی بطری شیشه ای در میان دستانش شکست و به زمین ریخت خون از دستانش جاری شد میکایل و دانیال دیدند و فهمیدند که این آرامش آتش زیر خاکستر داوود است او کماکان در همان حال و هوا به سودای همان افکار دیروز زندگی می کند همین اتفاق کافی بود که دانیال و میکایل بران شوند تا رو در رو با داوود صحبت کنند بپرسند و این سکوت چند وقتی او را بشکنند در یکی از همان روزهای سخت وقتی آنها برای خوردن و استراحت فرصت مناسب پیدا کرده بودند، پیش داوود رفتند. از دیرباز عادت داشتند که سه نفری با هم غذا بخورند. اما بعد از آن اتفاق و در چند ماه گذشته، داوود از آنان کناره میگزید و به گوشه‌ای در خلوت غذا میخورد و استراحت میکرد. چه ساده لوح بودند آنها که فکر میکردند او آرام و فرمانبر شده است. نمی‌فهمیدند به طول تمام این روزها او در حال فکر و نقشه کشیدن است دانیال و میکاییل در کنارش نشستند و میکاییل بعد از کردن چند لغمه گفت برادر چرا با ما صحبت نمی ما دوستان تو هستیم باید که با ما درد و دل کنی؟ هرچه در دل توست با ما در میان بگذار و از غمهایت کم کن دردت را بگو خودت را سبک کن داود در حالی که بی تفاوت لغمه هایش را می سری تکندان دانیال فریاد زد معنای این همه سرتکان دادنهای دادن های تو چیست دیر زمانی است که در پاسخ هر صحبت ما فقط سر میدهی در همین بین داوود ظرف غذایش را که هنوز کامل نخورده بود به کناری گذاشت و خواست از جایش برخیزد و برای استراحت دورتر برود که میکائیل دستش را گرفت و گفت داوود تو را به خدا قسم میدهم با ما صحبت کن داوود روزه سکوت چند ماهش را شکست و گفت از چه میخواهید بدانید؟ میخواهید با شما چه بگویم؟ میخواهید مثل خودتان درد و دل کنم از رنجهایم بگویم برای مثال از درد چوب آن روز و سرآخر شما موعظم کنید؟ من نیازی به صحبت کردن با شما ندارم و در حالی که دست میکایی را پس میزد از آنجا دور شد دانیال فریاد زد داوود تو مثل برادر ما هستی ما یک خانواده این تو باید به ما بگویی و با ما درمیان بگذاری داوود در حالی که عصبانی و پرخاشگر بود به سمت آنها آمد و فریاد زد شما برادر و خانواده منید چرا آن روز که به کمک نیاز داشتم به کمکم نیامدید چرا آن لحظه که کتک میخوردم و خونم به زمین میریخ به دادم نرسیدید میکایی گفت برادر چه میگویی؟ مثلا چه میکردیم؟ او صاحب ماست مگر میتوانستیم چوب را از دستش بگیریم یا مگر میتوانستیم او را مهار کنیم تا تو را کتک نزنند داود کلافه و پریشان فریاد زد صاحب ماست یعنی چه؟ این حق را چه کسی به او داده است؟ چرا باید صاحب ما باشد و هر کاری که بخواهد با ما بکند؟ شما می ترسید آری شما ترسیدید و کاری نکردید دانیال گفت این حرفها چه معنایی دارد معلوم است که ترسیدید او صاحب به جان و زندگی ماست اگر در برابرش قد علم کنی ما را خواهد کشت داوود که حال و روز خوبی نداشت عصبانی تر فریاد زد صاحب به چه چیز ما چه کسی او را صاحب ما کرده چگونه ما را میکشد مگر ما دست و پا نداریم، این ترس شماست که او را به دینسان وقیح کرده است وگرنه او هم مثال ماست، چرا حق خودمان را از این لاشخورها نمیگیریم؟ میکائیل گفت آرام باش، شاید حق ما توسط او و امثالش خورده شده باشد اما این دنیا اینگونه ساخته شده، او صاحب ماست و ارباب بزرگ مالک او همانطور که همه ما بندگان خداوند بزرگ هستیم، این نظام جهان است مگر نشنیدی یعقوب همیشه چه میگوید؟ او فریادها و دردهای ما را شنیده و دیده است آری منجی همه اینها را دیده است و به همین زودی ظهور خواهد کرد و داد مظلومان را از ظالمان خواهد ستاند داوود فریاد زد بس کن چرا اباطیل به هم بافی؟ یعنی او به خاصه پروردگار عمل میکند یعنی آزار و اذیت ما شاید خاصه پروردگار باشد نه او به ما ظلم میکند چون ما به او اجازه میدهیم این سکوت ما او را تا به این حد جریح کرده است میکائیل به میان حرفش آمد و با لحنی آمرانه گفت وظیفه ما نیست او را ادب کنیم این وظیفه منجی عالم است اوست که باید حق را بگیرد ما در انتظار ناجی بزرگ مانده و میمانیم تا روزی که حق ما را باز پس گیرد داود که بسیار خشمگین بود چند باری به این سوه آنسو رفت گویی حرفی در گلویش مانده باشد و چند مدتی است که میخواهد بگوید و حالا هم قدرت گفتنش را ندارد در حالی که سراسینه با عصبانی بود چند بار لب سخن گشود گفت من و هر بار با گفتن من حرفش را قط کرد و چند ثانیهی بعد دوباره گفت من در همین حال دانیال گفت بگو تو چه کرده ای؟ داود که به یک بار نیروی در وجودش دمیده شده بود رو به آنها گفت از آن روز تا به حال هر روز و هر شب میان کار و غذا خوردن میان درتایم میان همه و همه به این فکر می کردم. به خدا و آینش به دنیا به صاحبان به ارباب به یعقوب به ناجی در تمام این روزها به ناجی فکر می کردم. و در انتهای تمام این فکر ها از خود میپرسیدم چند سال از زمان آمدن پیامبر گذشته 100 سال هزار سال چند سال است او آمده و از آن روزها ناجی خواسته که ظهور کند چند نسل چند آدم هم شما زندگی کردند و در این عذابها جان سپردند آیا آنها هم در انتظار ناجی نبودند آیا عمر تباه نکردند و سرآخر در میان همین آرزو جان نباختند آیا ناجی به طول عمر حیات ما ظهور خواهد کرد آیا او میآید و حق ما را از این ظالمان میگیرد اگر نیامد که ما به طول همه عمرمان در درد و عذاب ایم تمام آرزوهایمان را میان همان چاه انداخته و از رویش ایم آری من به اینها فکر کردم. می خواهم حقم را از این جهان بگیرم. من در انتظار ناجی عمر تلف نمی کنم. من به این خواب هزاران ساله فرو نخواهم رفت. اینها را گفت و دانیال و میکائیل بر سر جایشان خشکیدند و مبهوت به داوود نگاه کردند. که ناگهان میکائیل به خود آمد و گفت کفت می گوی. کف میگوی داوود از خدا طلب آمرزش کن که اینها همه کفر است داوود از آنجا دور شد و بدون اینکه استراحت کند دوباره به مزرعه برگشت و کار خودش را از نوع آغاز کرد به سختی مشغول کار بود عرق میریخت و با توان بیشتری کار میکرد و خیشتن را قرق در کار کردن کرد کتاب ناجی اثر نیما شهزواری بخش چهارم روشنگری کمی دورتر جایی که دانیال و میکائیل نشسته بودند هر دو حیران و بحت زده به هم نگاه می کردند درگیر صحبتهای داوود و افکار شک گرفته از این صحبتها غرق فکر بودند چندی طول کشید آنقدر طول کشید که دیگر بردگان به آنها گفتند که زمان کار فرا رسیده و باید که برخیزند آن دو که مات و مبهوت بودند برخاستند و سر کار رفتند زیر چشمی داوود را نگاه می کردند. برایشان خیلی سخت بود از روزی که به دنیا آمده بودند همیشه در گوششان از این مباحث دینی خدا پیامبر و ناجی سخن گفته بودند و با تک تک تار و پودشان آنها را می شناختند. لمس می کردند و در میان تمام سختیها به آنان پناه میبردند و از آنها نیرو می جستند. به درازای تمام عمر به امید ظهور ناجی زندگی می و در دل آرزوی این آمدن بود. که ها را زنده نگه داشته و در این سالیان دراز تا کنون با چنین صحبتهایی روبرون نشده بودند که کسی با این سراحت در باب ناجی سخن بگوید همه و همه از وجود ناجی خالصانه و ملتمسانه صحبت می کردند به خصوص بردگان که تمام امید و زندگیشان ناجی بزرگ دنیا بود و صاحبان هم تمام عشق و زندگیشان در خدا و پیامبرش خلاصه میشد و کسی تا به چنین صحبتهایی نداشت. به ناجی بسیار احترام میگذاشتند اما خیلی از آنها درباره او چیزی به زبان آوردند و در مجموع تمام این دهکده در این باورها زندگی می کرد و این اعتقادات بخش بزرگی از زندگی آنان شده بود. و توان شنیدن سخنی در برابر آن نداشتند تقریبا همه دهکده این افسانه را شنیده بودند که کمی دورتر وقتی یکی از صاحبان که بسیار ثروتمند بود و از جایگاه والایی در دهکده برخوردار در شبی که مست بود فریادهای بلندی میکشید به روی ایوان قصرش آمد و یک ریز فریاد زد به خدا و رسولش بی احترامی کرد آنقدر فریاد زد که صدایش را همه در دهکده شنیده بودند وقتی همه به دور قصرش جمع شدند و او را در حال اربده زدن و بد و راه به خدا دیدند ناگهان آسمان ساغهی کرد و این ساغه مستقیم به جان صاحب افتاد چندی طول نکشید که او در این درد جان داد و به زمین افتاد هرچند این ها و این افسانه ها به طول عمر دانیال و میکائیل نبود اما حالا که به آن فکس میکردند و به حرف های داوود ربطش میدادند، دادند گویی چندوار این اتفاق را به چشم دیدند و در آن روز زیر ایوان آن قصر بودند به گفته ساکنین دهکده این افسانه مربوط به صدها سال پیش بود اما در ذهن بردگان به خصوص دانیال و میکایی اینقدر نزدیک و قابل لمس بود که حتی از همین حرف زدن های چند ساعت پیششان با داوود هم برایشان نزدیکتر و واقعیتر به نظر میرسید. کار روز تمام شده بود. بردگان پیش به سوی کلبه های خودشان در راه بودند و داوود باز هم بی سایرین خود را به پشت میز رساند. بدون اینکه با کسی حرف زند، قضایت را به سرعت خرد و سرآخر به میان تختش رفت تا بخوابد. دانیال و میکائیل هم بعد از شنیدن آن حرفها از زبانش دیگر با او هم کلام نشدند و شاید حرف زدن با او را هم گناه می‌پنداشتن. خلاصه که از آن اتفاق هیچ کدام حرفی نزدند. البته نه فقط با داوود، حتی با خود و بین خودشان هم هیچ حرفی رد و بدل نشد. سارا از همان ابتدای آمدن مییکائیل و دیدنش با او حرف میزد دستش را میگرفت و سر سفره به چشمانش چشم میده. از او هیچ واکنشی نمیدید در پاسخ تمام سوال تنها سر تکان خورده ای می میدید و میکائیل حتی یک بار هم به سخن نیامد. سارا نگران شده بود. هر کار می کرد تا میکائل به سخن بیاید ولی در این کار موفق نبود. بعد از اینکه داوود از سر سفره برخاست دانیال و میکائیل مسیر راه رفتن او را دنبال کردند و در همین حال بود که سارا گفت برای داوود اتفاقی افتاده دانیال سری گفت نه هیچ اتفاقی نیفتاده اما هنوز هم پکر است بعد از گفتن این حرف به دیگران شب بخیر گفت و به میان تختش رفت چندی طول نکشید که میکائیل هم از سر میز برخواست و بعد از رفتن او سارا هم به سرعت به بالینش رفت تا با او صحبت کند. میکائیل خسته به روی تخت دراز کشیده بود. در قلبش احساس درد داشت، نفسهایش سنگین شده بودند و سنگینی دنیا را به سینهش حس می کرد. در همین حال نظار سارا دستانش را به پیشانی و بونه هایش کشید و بدون هیچ حرفی در کنارش آرام دراز کشید. میکایل در خیال و رویایش دوباره چهره مردی را دید که این بار بلافاصله در همان نگاه اول او را شناخت. سرورش بود. ناجی بزرگ جهان آرام به پیش می‌آمد و زیر لب میگفت میدانم در عذابی روزگار سختی داری." اینها را می گفت و چشمانش خیس میشد. ناجی با شمشیری در دست سرستن صاحبان و ظالمان جدا میکرد و سوار بر اسبی از کنار مراته و مزاره میگذشت. درب در به کلبه های بردگان را میشکست و قل و زنجیرهایشان را باز میکرد و به سوی آسمان ها اروج می کرد میکایل تکانهای بسیار سختی میخورد و تمام تنشخیص عرق بود سارا که ترسیده بود لیوان آب آورد و روی صورت میکایل ریخت مرد سراسیمه از رویا برون شد و روی تخت نشست. سارا در آغوشش گرفت و گفت چه شده عزیزم؟ چرا اینقدر پریشانی؟ تو را به خدا با من صحبت کن. میکایل در حالی که از چشمانش عشق جاری می گفت چه بگویم؟ باز هم ناجی به رویاهایم آمده بود. سرورم برای آزادی ما در تلاش است به همین نزدیکی ما را نجات خواهد داد. سارا دستان سرد میکائیل را در دستانش گرفت و مدام گفت می دانم عزیز دلم می دانم که ناجیبا ماست میکایل با عصبانیت گفت به سرورم توهین می کنند چگونه در برابر اویی که همه جانش برای آزادی ماست قد علم می کنند این دیوانگان به این در والا و گوهر نایاب این گونه توهین کردند. سارا در حالی که سعی در آرام کردن او اوداش گفت چه شده؟ چرا اینقدر عصبانی هستی؟ میکایل که گویی منفجر شده باشد گفت این داوود کافر همین دیوانه هر چه دلش خواست از خدا پیام آور پاکش و ناجی به ما گفت داوود که این صداها را شنیده بود از جایش برخاست و به میانشان آمد رو به تمام همدردانش گفت چه میگویی میکایل؟ از کهی تا به حال من کافر و دیوانه شده چرا هزیان میگویی نیکائیل پر از خشم گفت معلوم است که کافر شده ای تو به سرورمان توهین کردی به اویی که رها تمام انسان هاست او ناجی و سرور تمام ما بردگان است در حالی که میگفت عشق در چشمانش جمع شده بود داوود به آرامی گفت دوستان حرف من این است ما باید خودمان حقمان را بگیریم نباید به طول هزاران سال باز نشینیم و در انتظار ناجی ظلم و زشتی را تحمل کنیم آیا شما کم در این زندگی عذاب دیده اید؟ آیا تمام عمر عذاب نکشیدید؟ آیا بارها آرزوی مرگ نکردید؟ آیا سودا و آرزویتان آزادی نیست؟ آیا نمیخواهید رهامیان دشت سبز قدم بردارید فرزندانتان را به آغوش بگیرید و از کار کردن خود تعام بخورید و محتاج دیگری نباشید چرا خودتان برای خیشتن کاری نمیکنید چرا خودتان تلاش نمیکنید چرا همه چیز را به عالم غیب در دست ها حواله داده اید آری کفر گفت به میکایل و دانیال گفتم چند نسل قبل از ما زندگی کردند آیا آنها هم به طول عمر در انتظار ناجی نماندند؟ چه نشانهای چه برهانی وجود دارد که ما هم مثال آنها عمر تلف نکنیم باید خودمان این آزادی را به دست آوریم. منجی ما تلاش خودمان است میکائیل که حالت دیوانه‌واری به خود گرفته بود از روی تخت بلند شد و پرخاشگر به سوی داوود آمد و فریاد زد تو کافری تو کافر شده ای در بین گفتن حرفهایش قبل از اینکه دستش به داوود برسد به زمین خورد و از هوش رفت سارا که فریاد میزد و هراسان بود به سمت میکائیل رفت او را در آغوش گرفت و گریه کرد داوود و دانیال به این سو و آنسو می رفتند تا برای به حوش آوردن میکایل کاری کنند و سرآخر این شب طوفانی هم صبح شد از فردا صبح آن روز صحبت های این کلبه و فریاد های داوود در میان دیگر کلبه ها و کم کم پس از گذشت چند روز میان تمام بردگان قلم اسحاق پخش شد بحث اصلی آنها هم در همین باب بود درباره ناجی درباره ظهورش درباره دردها و مشکلات خودشان درباره این عذاب سرشار که به طول تمام عمر با آن دست و پنجه نرم می‌کند از تقیان و فریاد از آزادی جمع‌هایی که در هنگام استراحت و قضا خوردن با هم از طعم شیرین آزادی می‌گفتند تعمی که آن را نچشیده اما به طول تمام این سالیان بارها و بارها آن را در ذهنها ترسیم کرده بودند اما داوود تمام وجودش زندگی در میان این رویاه نبود همیشه در حال نخش کشیدن برای رهایی جستن از اسارت و بردگی بود بیشتر وقتش در میان کار کردن و استراحت و خواب در حال بال و پردادن به نخشه هایش بود گاهی به این فکر می کرد که شبانه از پرچین های قلم را بیرون برود و راهی را به دور دست ها پیش گیرد. خبر آن را داشت که چندی دورتر از دهجده خودشان جایی است که مردم در آن برده نیستند و همه می توانند زندگی کنند. بارها و بارها به این فکر می کرد تا خود را زودتر به آن سوی مرزها ها میدانست اگر برود و گیر بیفتد راه برگشتی برایش نیست و این را هم میدانست که دهکده توسط ارباب اداره می شود و ارباب رفتار وحشیانهای با بردگان فراری دارد بردههایی هایی که دورترها فرار کرده بودند و در میان شهر بعدی از شکنجه بسیار کشته شده بودند جنازه هایشان ها در میدان شهر آویزان بود می دانست که ارباب در تمام شهر معمورانی گماشته تا شب و روز کشیک بکشند تا اگر بردهای خواست فرار کند او را دستگیر کنند و ارباب آنقدر به این نظام ساخت احترام می‌گذاشت که وقتی بردهای فرار می‌کرد مبلغ او را به صاحبش پرداخت می‌کرد و او را می‌کشت داوود در پی راهی بود که وقتی رفت دیگر بازگشتی در کار نباشد بارها نقشه هایی به ذهنش می رسید با مرور آنها در ذهنش به کم و کاستی های آنان پی می برد و خلاصه با دور کردن بسیار راه درست را می جست. با تمام وجود به این راه ایمان داشت و مطمئن بود که این طریقت او را به آزادی میرساند اما دو موضوع باعث می شد که او هرگز نخواهد به این راه جامعه عمل بپوشاند یکی وجود صاحب ساق بود که به طول تمام عمر از او کینه بد داشت از همان کودکی از دردها و رنج از مرگ دیگر بردگانی که به چشم دیده بود و این را هم میدانست که در زمان خرید خودش صاحب ساق او را در ازای بدهی از پدر و مادرش گرفته و هیچ وقت نام آنان را نفهمید داود نمی بدون گرفتن انتقام از اسحاق این قلم رو را ترک گوید و باید پاسخ زشتی های او را می دا. و اما دلیل دوم که خیلی فکرش را درگیر می کرد و دست و پایش را می بست، آن خیلی دیگران بود آن سیل بیشمار از بردگان وقتی آنها را در عذاب می‌دید دلش پرپر می‌شد وقتی کودکان برده را میدید که چگونه در عذاب زندگی می‌کنند دلش از رفتن سرد می‌شد و می‌خواست آنها را هم از این نکبت نجات دهد فکر به دانیال و سارا و میکائیل که از خانواده به او نزدیکتر بودند و فکر به آنها او را بیشتر سر جایش میخوب میکرد و همین بود که داوود با داشتن نخشهی بزرگ در ذهن و رسیدن به آزادی نتوانست که برود و میان مزرعه مند و به کارش مشغول شد و باز هم درد را به جان خرید میکایل از بیشترها افسرده تر شده بود به سختی و اندک حرف میزد و تنها شبها در کنار سارا و آن هم به زور او چند کلامی سخن میگفت چشمانش را می و در رویا به امید دیدن ناجی ساعتها بیدار می و زیر لب دعا می دانیال هم مثل سابق به کارش مشغول بود و گهگاه به فکر میکایل میافتاد. حال نظارش را میدید و سر کار به ایادتش می با او هم کلام می شد اما میکایل بیشتر از اینها ناراحت و پریشان بود که بدین سادگی با کسی حرف بزند بعد از مدتی دانیال از این رفتنها خسته شد و سعی کرد که زندگی خودش را پیش ببرد. اما در خلوت به داوود و حرفهایش هم فکر می کرد اما جرأت نزدیک شدن به او را نداشت. نمی توانست که با او هم کلام شود. هم از نگاه دیگران می ترسید و هم از سرنوشت خداوند قادر و ناجی بزرگ. هم از خبرچین هایی که شاید خبر داوود و بعد از آن رفاقت آن دو با هم را برای صاحبان ببرند و هم در کنار اینها از میکایلی که سخت در انتظار کسی بود تا دق دلش را سر او خالی کند. داوود به واقع تنها شده بود بعد از آن اتفاق و آن فریادها او به واقع در خلوت بود و همه دور و برش را خالی کرده و حتی کسی حاضر به رویارویی با او هم نبود. حتی بعضی ها به او لن و نفرین هم میگفتند و داوود بی تفاوت به گفته های آنها در حال پیشبرد اهداف خود بود. شاید خیلی خیلیها با دیدنش فکر میکردند که او همه چیز را از خاطر برده است و به چیزی به جز زندگی میان قلمبه اسحاق فکر نمی کند اما شبیه و اتفاقی همه چیز را عوض کرد. داود از خیلی وقت پیشها نقشهاش را کشیده بود. و آن شب اتفاقی او را واداش که حتما باید این کار را همین امشب عملی کند وقتی همه خواب بودند در به کلبه را آرام و بی صدا بست به آرامی خارج شد از میان بوتهها گذشت و خودش را به مزرعه رساند وقتی از مزرعه بیرون شد به مرتعه بزرگ رسید دور تا دور قلمرو اسحاق را سیمهای خاردار گرفته بود در به بزرگی که چندین گفت داشت و باز کردنش تقریبا غیر ممکن بود از این رو داوود مجبور بود از میان سیمهای خاردار رد شود. با تمام وجود به هدف بزرگی که در سرداش فکر میکرد و با ایمان قلبی از میان سیمهای خاردار گذشت قسمتی از بدنش به سیمها گیر کرد و تنش را زخمی کرد اما آنقدر امیغ نبود که خطرناک باشد آرام و با توجه کامل به همه جا از پشت خرمنهای دهکده به پیش رفت. هر لحظه امکان داشت یکی از صاحبان و یا سربازان ارباب او را ببینند و این مطمئنا پایان زندگی او بود. اما مصمم به راهش پیش میرفت با تلاش بسیار خودش را به سوی گوهر پاس رساند. همان قصر عالم دینی همان خانه خدا که هر هفته جمع کثیری از بردگان و صاحبان منطقه برای پرستش خدا به آنجا می رفتند. حال داوود با تلاش بسیار خودش را به نزدیک گوهر پاس رساند و آرام داخل شد این بنای عظیم نگهبانی داشت برای حفاظت از خانه خدا و مرد مقدس میان آن اما داوود به هر زحمت و ترفندی که بود خودش را به درون خانه خدا رساند امروز ظهر وقتی مشغول کار در مزرعه بود از زبان صاحب اسحاق شنید که حتما امشب به گوهر پاس خواهد رفت و به دوستش خاطر نشان می کرد که باید با یعقوب پیش صحبت ها کند وقتی داوود اینها را می شنید جرقی به جانش افتاد و گفت امشب حتما باید بروم و حال که موفق شده بود و آنجا بود میان خانه خدا بود در گوشهی و نزدیکترین جای به محراب خودش را مخفی کرد و از کمی دورتر چهره صاحب اسحاق و یعقوب را در کنار هم دید لبخندی از رضایت بر لبان داوود نقش بسته بود و خودش را آرام آرام آن دو نزدیک کرد و سعی در گوش دادن به حرفهایشان داشت صاحب اسحاق عصبانی بود به یعقوب می شما هیچ کاری برای ما نمی کنید. این چه موزه است؟ این چه صحبت هاییست؟ است شما فقط از خدا و ناجی حرف میزنید. خاصه ما چه می شود؟ یعقوب پیر گفت: میفهمم پسرم، حرف های شما را میفهمم. اما ما وظیفه ای داریم که آن را ارباب هر ساله به ما محول میکند و خودش تعیین میکند چه حرف هایی را کی و کجا بزنیم. اسحاق فریاد زد: یعنی ارباب هیچ از دغدغه های ما نمیگویند پدر مگر نه اینکه ما باید پول فراهم آوریم تا هم ارباب بتواند دهکده را اداره کند و هم پیشرفت هایی که می خواهیم برای به بار بیاید و هم از این پول به شما آلمان دین بدهیم تا راه و طریقت خدا را پیش ببرید اما مگر این ممکنه است شما شبان روز از آخرت و ناجی می گویید که بردگان کار کنند با این حرف پای شما آنها فقط مدهوش می و کار نمی کنند و اگر آنها کار نکنند ما چگونه پول به دست آوریم تا شما و ارباب را سیراب کنیم یعقوب در حالی که روی صندلی نشسته بود گفت پسر ما نمی از دستورات الهی حرفی نزنیم اسحاق گفت پدر من هر فمین است آنها را برای کار تشویق کنید درد ما کار نکردن آنهاست یعقوب در پاسخ گفت بله می دانم اما ساختار صحبت ما را ارباب مشخص می کند ما سر خود نمیتوانیم چنین کاری بکنیم هفته دیگر قرار است ارباب خودش به همراه تمام عالمان دین و بزرگان و صاحبان دهکده در جلسه شرکت کنند و درباره بهتر شدن اوضا پیشنهاد دهند تو میتوانی هفته دیگر اینجا بیایی و حرفهایت را بزنی داوود که قلبش تند میزد بعد از شنیدن حرفهای آنان خودش را آرام به پنگره پشت سرش رساند و از میان آن خودش را به بیرون اندار سری از میان گوهر پاس دور شد به سرعت میدوید در میان مرات پرواز میکرد دلش پر از هیجان و شور بود گویی به تمام خواسته هایش رسیده بود در حالی که با سرعت میدوید کمی دورتر سربازی را دید خودش را به زمین انداخت در میان الافزار بلند مخفی شد توان نفس کشیدن نداشت کمی دورتر در میان کلبه دانیال از نبودن داوود مطلع شده بود پر از استراب بود میخواست که همه را بیدار کند و فریاد بزند اما میدانست این کار او است با امضا کردن سند مرگ داوود داوود آرام آرام و سینخیز میان الفزار پیش میرفت و مسیرش را منحرف کرد وقتی سرش را کمی بالا آورد دید در میان حرکت سینخیز او سرباز هم به سمت مخالف حرکت او رفته و اینگونه گونه هست هم دور شده اند. پیش رفت و سراخر خودش را به خلمبو اسحاق رساند به سختی از میان سیمهای خاردار گذشت حتما تجربه کسب کرده بود که دیگر تنش را مجروح نکرد سری خودش را به پشت در به کل رساند وقتی در را باز کرد دانیال گفت کجا رفتی دیوانه و نگاهش به زخم و تن خونین داوود افتاد گونه که با ترس به زخمش نگاه میکرد گفت داوود با خودت چه کردی؟ چه بلایی سر خودت آوردی؟ در حالی که داوود آرام دراز می و لبخند رضایتمندی به لب داشت گفت دانیال حقیقت را جستم دانیال در بارای سرش مات به زخمش چشم دوخته بود و کمی بعد پارچه ای با کمی آب آورد تا روی زخم را بشوید بعد از تمیز کردن زخمش وقتی خواست با او حرف بزند دید داوود آرام در حالی که لبخندی به گوشه لب داشت خوابیده است. کتاب ناجی اثر نیما شه سواری بخش پنجم شور بردا صبح در تمام مدت کار دانیال داوود را زیر نظر گرفته بود که چگونه کار می کند و با چه اشتیاقی در حال گذراندن وقت است طبق معمول به کنار میکایل آمد و گفت به داوود توجه کرده ای چقدر سرمست و خوشحال است میکائیل بدون توجه به او مشغول کارش شد و زیر لب قرور کرد دانیال هر چقدر خواست حواسش را جمع کند و بفهمد که میکایل با خود چه می گوید به جز نام خدا چیزی از حرفهایش نشنید در همین حال یکی از بردگان اعلام کرد که وقت نهار و استراحت است میکایل به گوشه خزید و آرام گرفت در کمال ناباوری داوود به دانیال نزدیک شد و گفت بیا با شما کار دارم و او را به سمت میکایل برد و در کنارش نشست میکایل با اخهایی در هم سرش را بالا کرد و نگاهی خشمی به داوود انداخت داوود گفت سلام برادر امروز میخواهم با شما حرف بزنم حرف های مهمی برای گفتن دارم میکایل براشفت شفت و از میانشان بلند شد و قرقرزنان رفت دانیال گفت او دیگر حتی حاضر نیست نام تو را بر زبان بیاورد چه توقعی داری؟ بگو دیشب کجا رفته بودی؟ داوود که کمی دمق شده بود گفت هیچی به هواخوری رفته بودم و از کنار دانیال بلند شد و رفت تمام روز را مثل سابق بردگان کار کردند، محصولات را جمعآوری کردند و سرآخر شب همگی به میان کل برفتند و به دور میز نشستند. داوود، دانیال، میکایل، سارا و بقیه بردگان به دور میز نشسته و طبق عادت قبل از غذا، میکایل دعایی خواند و از خدا بابت تمام نهماتش تشکر کرد. هنوز دعایش کامل نشده بود که داوود از صندلی برخاست و رو به تمام بردگان این گونه شروع به سخن کرد برادران و خواهران ما به طول تمام عمرمان در بند صاحبان و ظالمان به اسارت ایم. میکایل به میان حرفش آمد و گفت این حرفها را تمام کن تو به دنبال آشوب و طغیان می‌گردی و ما علاغه‌ای به شنیدن موعظه های تو نداریم ما هر آنچه که باید در زندگی بدانیم را میدانیم و هر هفته در روزی مشخص موعظات را از زبان یعقوب پیر میان خانه خدا میشنویم دیگر نیازی به حرفهای تو نیست داوود فریاد زد دوستان من دنبال تقیان و آشوب نمیگردم من میگویم ما باید از چنگال این ظلم رها شویم من هیچگاه لب به کفر نگشودم میکائیل گفت صحبت های تو همش کفر است تو ناجی را مورد اهانت قرار دادی دانیال به میان حرفهایشان آمد و گفت میکائیل بگذار تا داوود حرفش را بزند. میکائیل نگاهی به جمع کرد و دید همه در انتظار شنیدن حرفهای داوود هستند. وقتی نگاهش به سارا افتاد که با چهرهی متعجب منتظر است تا داوود حرف بزند آب پاکی بر جسمش ریخته شد. از سر میز برخواست تا به روی تختش برود. داوود گفت برادر مهربان و کار من میکاییل طرف صحبت من همه شما هستید و بیشتر از همه خود تو. برادر، آزادی است که باید خودمان بستانیم. آیا هیچ بار حتی در خیالاتت هم به این فکر نکردی که آزادانه با همسرت زندگی کنی؟ خودت بارها به من نگفتی که دلیل فرزند نیاوردن تو و سارا این بود که سارا میترسد از فرجام فرزندتان؟ آیا خودتون نبودی که میگفتی ما هیچگاه حاضر نیستیم سرنوشتی را که خود تجربه کرده این را به فرزندانمان هدیه دهیم؟ وقتی نگاه داوود به صورت سارا افتاد دید که اشک از چشمانش جاری است داوود ادامه داد دوستان من حرفم یک چیز است بیایید خودمان برای این هدف مقدس تلاش کنیم و بدانیم کسی این حق بزرگ را به ما نخواهد بخشید میکایل که خشکین شده بود چند باری خواست فریاد بزند که میان همین دست و پنجه نرم کردنها با خیش داود ادامه داد دوستان من من دیشب از میان دیوارهای قلم رو گذشتم خودم را به گوهرپاس رساندم و گواه حرفهایم نیست که از سیمهای خاردار بر تنم مانده دانیال تو که دیشب مرا خونین در اتاق دیدی. همه به دانیال چشم دوختند و او با اشارت سر حرف داوود را تصدیح کرد داوود ادامه داد شاید برایتان جالب باشد که بدانید وقتی میان خانه خدا بودم چه دیدم؟ اسحاق به دیدن یعقوب رفته بود. آنها با هم حرف می زدند. بارها اینها را شنیدم که اسحاق از یعقوب می خواست تا بیشتر از مزایای کار کردن با بردگان سخن بگوید. آنها را اندرز به کار کردن سخت دهد اینها را زمانی که در گوشه مخفی شده بودم شنیدم و یعقوب که از حرفهای ارباب بزرگ شهر می و طریقتهایی که ما هر هفته میان خانه خدا میشنویم، از دستوراتی بوده که از جانب او به یعقوب می رسیده شاید هیچ کدام از حرفهایم را باور نکنید اما من به شما می گویم که راه رسیدن به آزادی فقط تلاش خود ماست میکایی فریاد زد اینها چیست که میگویی؟ میخواهی چه چیزی را ثابت کنی؟ ما از چه رو باید اباطیل تو را باور کنیم؟ داوود آرام و شمرده گفت هفته دیگر تمام صاحبان، علمای دینی و ارباب بزرگ در خانه خدا جمع خواهند شد ما باید از میان خود نمایندگانی انتخاب کنیم و برویم و به حرفهایشان گوش دهیم و با دست، اشارهای به میکایل کرد و گفت یکی از این نمایندگان باید میکائیل باشد و شوری در میان بردگان به راه افتاد پس از چندی داوود را هم به عنوان نماینده دیگر انتخاب کردند و میکایل که خوشگش زده بود توان گفتن صحبتی نداشت داوود خوشحال و شادمان به میان تختش رفت و چندی بعد همه یا به خواب رفتند یا خود را به خواب زدند و در پسوی تو در توی افکارشان به همه چیز این دنیا فکر کردند به برده بودنشان، به خدا، به ناجی، به همه و همه از فردای آن روز دوباره میان بردگان شوری شکس گرفته بود. دور هم جمع میشدند و از ملاقات یعقوب و اسحاق میگفتند. همه می دانستند که تا چند روز دیگر دو نماینده از میان آنها مأمور است که برای شرکت در جلسه صاحبان و علمای دین و ارباب بزرگ آماده شود. اسمشان در میان آنها گفته نشده بود اما همه می دانستند که این اتفاق به زودی خواهد افتاد کم کم این صحبت ها از دل قلم صاحب اصحاق بیرون رفت و دیگر بردگان دهگده هم کم و بیش از این اتفاقات با خبر شدند مطرح شدن این موضوع باعث شده بود تا بردگان احساس شجاعت بیشتری کنند آن همه سکوت دیروز را بشکنند و امید داشته باشند اخبار تازه‌ای به گوش می رسید. در فلان مزوعه وقتی صاحبی در حال کتک زدن بردهش بوده با سیلی از بردگان روبرو شده که او را به کناری پس زدند یا در فلان جای این دهکده وقتی اربابی به یکی از برده ها دستور داده بود که دیگر برده را شلاق بزند او تمرد کرده و تمبزدن همدردش نداده است. در همین روزها بود که خبر فرار کردن بردگان زیادی نیز در دهکده پخ شد و در میان این اخبار بردگان خبر کشته شدن سیل زیادی از آنها را شنیدند و جنازه های بیشماری از آنها به گوشه و کنار دهکده آزین شده بود تا عبرت سایرین شود. وقتی بردگان را به هر دلیلی بیرون می‌بردند موظف بودند از آن میدان نیز عبور کنند و در مواظات داستان مرگ این بردهها افسانه‌های طول و درازی شکل گرفت از بردگان زیادی که از این جهنم گریخته و حال در آزادی در دهکده‌ای دورتر از اینجا که به طول تمام عمر قبله اعمال تمام برده‌ها بود زندگی می‌کنند همه با هم ساعت‌ها به نقش آنان در هوای آزاد آن ده‌کدهی زیبا که همه چیز برایش دوست داشتنی بود چشم می‌دوختند و حسرت می‌خوردند و داوودی که در تمام این مدت در قلمرو صاحب اسحاق به اخبار ریز و درشت گوش می‌داد فکر می‌کرد و باز هم فکر می‌کرد در تمام این مدت حتی لحظه‌ای هم فکر فرار و رسیدن به آزادی در ذهنش خطور نکرده بود و بیشتر به روز موعود فکر می‌کرد به روزی که تمام حرفهایش را به میکایل و دیگر بردگان بفهماند در این مدت میکایل و داوود حتی کلمه هم با هم صحبت نکرده بودند. اما دانیال همیشه خودش را به کنار این دو می رساند. با آنها گرم صحبت می شود. البته گرم صحبت شدن با آنها که نه تنها خیشتن صحبت میکرد و حتی معلوم نبود آنها اصلا حرفی می یا نه. اما مشخص بود که همه دنیای جدیدی در پیش رو میبینند و استراب آن روز موعود برای میکایل و داوود از همه بیشتر بود در یکی از همین شبهای پر استراب بود که سارا به بالین میکایل آمد و با او صحبت کرد میکایل آیا به حرفهای داوود ایمان نداری؟ آیا فکر نمی کنی که او راست بگوید؟ میکایل در حالی که خودش را به خواب زده بود چیزی نگفت سارا ادامه داد به نظرت ما نباید خودمان برای خود کاری بکنیم؟ آیا این همه سکوت اینها را تا بدین جا گستاخ نکرده است؟ خاطرت هست کایل، چه روزهای سختی را کنار هم در این زندان گذراندیم؟ چه هایی که ندیدیم؟ آن همه هایی که به ما روا شد. الیزابت را به یاد می‌آوری که چه کودک زیبایی داشت؟ خاطرت هست گونه فرزندش را از او جدا کردند؟ یادت هست مثل دیوانه ها شده بود مدام گریه می کرد و حرفی نمیزد چگونه آرام و بی هیچ حرفی مرد و آب از آب تکان نخورد هلن را به یاد داری به خاطر آن اشتباه کوچک به خاطر کمی شور شدن غذایش چگونه ساعت ها زیر دست و پای صاحب اسحاق کتک خورد و صدای فریادهایش هنوز در بوشم تنین انداز است آن شلاق زدنهای صاحب اسحاق را هنوز میان کابوس می میبینم سارا حرفهایش را تمام کرد و آرام پشت در پشت میکایل چشم بست و میکایل که در میان افکارش به یاد ابراهیم افتاده بود ابراهیم دوست دوران کودکیش بود چه شب و روزهایی با هم گذراندند با هم هم قسم شدند که همه عمر را با هم باشند و دست برادری دادند و روزهایی را با هم سپری کردند و در آن روزی که با صاحب اسحاق برای شکار رفتند، چگونه صاحب اسحاق را به سمت شکاری که افتاده بود، مثال سگهای شکاری فرستاد و در بین همین کنکاوش بود که به میان دره افتاد. در حالی که آرام عشق می‌ریخت تا صدایش را کسی نشنود، چند بار نام خدا را برد و آرام چشمانش را بست. به دنبال تمثیل ناجی می گشت که کمی بعد با صورت الیزابت روبرو شد و آن زن که عشق می ریخ و سر به دیوار می فرزندش را از اون دور می کردند. وقتی به صورت فرزندش چشم دوخت دید ابراهیم است که به او نگاه می کند و فریاد کمک سر می دهد و میکایلی که بین همین کابوسها عرق می ریخ و آرام گریه می بالاخره روز موعود فرا رسید میکایل در میان کار چند باری دست و پایش لرزی به سختی میتوانست روی پا بند شود مینشست بعد از خوردن جره ای آب دوباره به کارش مشغول میشد و همین رفتارهایش باعث شد که اصحاق فریاد بزند و عصبانی بگوید تنه به کارهایت برس این فریادها او را محکم تر میکرد سعی میکرد با استرابش هر طور که شده کنار بیاید داود خیلی مسمم اما شاید هم کمی استراب داشت لیکن لحظه ای هم آن را بروز نمیداد. داد ها را می تا شب فرار سد بتواند به وظیفه سنگین از جامعه عمل بپوشاند بالاخره زمان احخاق این اتفاق رسید آن دو که هنوز هم بسیار با هم سرسنگین بودند بدون رد و بدل شدن حرفی میانشان آماده رفتن شدند و باقی بردگان در کلبه پر استراب لیکن آرام بر جای خود دراز کشیدند تا کسی را به خود مشکوک نکنند اما تمام وجودشان نزد میکایل و داوود بود تنها کسانی که در کنار آن دو ایستاده دانیال و سارا بودند که آنها را در آغوش گرفته و آرز روی سلامتی برایشان کردند بعد از در آغوش گرفتن و خداحافظی با آنان به انتهای قلمرو اسحاق رسیدند وقتی به سیم خاردارها نزدیک شدند داوود که تجربه گذشتن از آن را داشت به میکائیل گفت سب کن تا ذره آن را باز کنم تا بتوانی رد شوی. میکایل در انتظار ماند و بعد از این کمک هر رد شدند و پیش رفتند. داوود در پیش بود و میکائیل به تعقیبش می رفت. بعد از گذشت چند زمانی که در راه بودند میکائیل گفت معلوم هست کجا می رویم؟ اصلا از انتهای این راه خبر داری؟ داوود با لحنی آرام گفت آری می کجا می رویم و مسیرش را خوب بلدم اما خانه خدایی که امشب در آن جمع می شوند از اینجا دورتر است فقط آرام پشت سرم بیا کمی دیگر که راه برویم به آنجا خواهیم رسید به راه افتاد میکایل هم کماکان به تعقیبش بود در کلبه میان قلم روی اصحاق دل عظیم در دل دانیال و سارا برپا بود سارا مدام عشق می‌ریخت و نام خدا را ذکر می کرد. و دانیال هر از چندگاهی از تخت بر می خواست و دوباره مینشست، نمیدانست با این کلافگی چه باید بکند. داوود و میکائیل بالاخره به خانه خدا رسیدند و پشت دیوارهایش جا خوش کردند. در تعقیب ای بودند که خود را از آن به داخل برسانند. بعد از کمی جستجو داوود توانست راهی به دیواری که مقداری از آجرهایش ریخته و راه کوچکی به داخل آن باز کرده بود. وقتی وارد شدند دیدند که چه جماعت بیشماری از صاحبان و علمای دینی در میان خانه خدا هستند. آنها بدون همراهی هیچ بردهای به خانه خدا آمده بودند و حال انتظار میکشیدند. میکایل و داوود در گوشهی که مشرفت آنها باشد و بتوانند به حرفایشان گوش کنند جا گرفتند. چند دقیقه از این استقرار و استراب نگذشته بود که همه از جای برخاستند و به نشانه احترام در برابر مردی پرنش کردند از میان ها چند باری میکائیل و داوود او را دیده بودند اما بلند بلندقطر از تصویر ذهنیشان به نظر میرسید همان مرد لاغرندام درازقامت با کلاهی بلند بر سر وارد شد و همه در برابرش تعظیم کردند و درود به ارباب فرستادند ارباب در بالای مجلس نشست و پس از احوال پرسی مختصری با بعضی از آنها در انتظار شروع بحث بود در میان این جمع داوود در پی صاحب اسحاق گشت و بعد از کمی کاوش را جست در گوشه این نشسته بود و میکائیل که توانست یعقوب پیرانیز در این جمع پیدا کند بعد از نشستن ارباب هم همه این میان, میان میهمان ها در گرفت. هر کدام با دیگری صحبت می کردن که با اشارت کوچکی از سوی ارباب همه ساکت شدند ارباب با صدای کلفتی که داشت گفت دلیل این همه بلوا در دهکده چیست؟ چرا پس این بردگان تا این حد ما را به دردسر انداختهاند؟ انداختند؟ یکی از صاحبان به سخن آمد که سرورم اینها از کوتاهی مردان دین است آنها باعث شدند که این گونه بلوایی به میان آید یکی از علمای دینی گفت چرا ندانم کاری خودتان را به دوش ما می اندازید؟ در همین میان یکی از دیگر صاحبان گفت ما چه کم کاری کرده ایم؟ در پاسخش عالم دینی این جواب داد شما هستید که با سهلنگاری خشمهای بیهوده و تنبیه های این بردگان را تا به این حد به شور و تقیان باداشتید اسحاق از همان گوشهی که نشسته بود جلوتر آمد و پس از اجازه از ارباب گفت اینها همه تقصیر شما مردان دین است شما که به جای موعظه بردگان برای کار کردن بهتر آنان آنها را موعظه به ناجی می کنید. شما دلیل این بلوایید معنای این ناجی چیست؟ مگر دور از این است که ما ظالمیم و ناجی خواهد آمد و ما را از میان برخواهد داشت شما با گفتن اینها بردگان را به آینده‌ای پر امید می‌رسانید. یکی از علمای دینی صحبت های صاحب اسحاق را برید و گفت ما با صحبت بردگان را به جهان دیگری میبریم و از این دنیای فانی دورشان میکنیم با این گفتارهای ماست که آنها دل از این دنیا و مظالمی که در آن اسیر شده اند میکنند و به جهانی والاتر از این دنیا فکر میکنند مگر همین خاصه خود شما نبود مگر شما صاحبان نمیخواستید که با این صحبت آنها را از این دنیا دور کنیم و داشتن ناجی باعث شود که آنها دیگر هوس طغیان نکنند یکی از صاحبان فریاد زد بله ما میخواستیم اما ما به این هم معتقدیم که پروردگار کار کردن را یکی از ارکان دین میداند و این کار کردن و اجرش آنها را به خدا نزدیک میکند منزلگاهی پاک به آنها در جهان دیگر خواهد داد و باعث می شود که آنان بهتر کار کنند و ما محصول بیشتری به فروشیم با درآمدش هم به ارباب خراج دهیم و هم به شما آلمان دین در راه پیچپرد دین کمک کنیم. اما شما از این وظیفه شانه خالی کردید و بردگان را به کار تشویق نمی کنید همیشه در خانه خدا از ناجی و آیندهای به دور از ظلم حرف میزنید و این آنها را جریه تر کرده است یعقوب پیر برخاست و گفت یعنی شما میگویید ما از این حقیقت چشم بپوشیم راستی خدا را ناجی بزرگ جهان را برای آنها بشارت ندهیم و فقط از کار بگوییم من که دیگر حرفی برای گفتن ندارم و همیشه ارباب و سرور ما به ما گویست کرده تا دستورات خدا را تعلیم و حقانیت او را بشارت دهیم. در همین بین بود که ارباب از جایش برخاست و گفت دوستان من ما همه در برابر یک خدا نمی کنیم به یک دستور پای بندیم و پیام برمان یکی و قدسی است این بزرگ مرتبه و سالارمان راهی برایمان به وجود آورده طریقتی که هم راه این دنیا و هم راه جهان دیگر باشد او به ما آموخته تا در تمام عمر راهی بجوییم تا زندگی بهتری بسازیم و مشکلات پیش رویمان را مرتفع کنیم دین ما دین زندگی کردن است و خدای بزرگ به ما طریقتی نشان داده تا بهتر زندگی کنیم این دهکده تمام پیشرفتها و تمام قدرتش را مدیون لطف پربردگار بزرگ جهان و پیامآور راستی نشست پیامبر بزرگ درس بزرگی به ما داد که برای پیشبرد هر هدفی نیاز اولش اطاعت کردن است. همان گونه که ما بندگان پربردگار بزرگ هستیم همان گونه که پیامبر هم بنده خداست، بردگان هم باید اوامر ما را اطاعت کنند و علمای دین باید بیشتر از هر چیز بردگان را به اطاعت فرا بخانند. همانطور که خداوند متعال این گونه فرموده و بزرگترین طریقتش بر جهان اطاعت و تسلیم در راه اوست. دوستان من، شما میدانید که ارباب بودن در خاندان ما ارسی بوده است؟ این وظیفه ی طاقت فرسا را من از پدر و پدرم از پدرش به ارس برده است. امروز که شرایط دهیده تا این حد خطرناک شده و بوی طغیان بردگان به گوش میرسد وظیفه دارم تا این راز پنهان میان خاندان من را برملا کنم. میدانید آخرین حرف های پدرم وقتی در بستر مرگ بود و میخواست عربابیت را به من واگذار کند چه بود؟ او به من گفت که از پدرش و پدرش از پدرش و همینطور اجداد ما از یکدیگر هر کدام در پایان عمر گفتند که دین خداوند بزرگ دین است خدا و رسولش فرمودند برای ساخت جهان بهتر باید هر روز از دیروزتان متفاوت باشید و طریقت تازه ای را پیش گیرید. او گفت زمانی که در دستها جدم در شرایط سختی مثل امروز به سر می‌برد از افسانه‌ای مدد برد وقتی تمام بردهها مثل امروز سر به شورش برمی‌داشتند و برای تغییر جهان خودشان خودشان را آماده می‌کردند او از آن افسانه که کم و بیش در میان مردمان رایج بود مدد برد و ناجی را به جهان هدیه داد نیکایل سر جایش خوش شده بود و داوود هم حال بهتری نداشت در همین بین ارباب ادامه داد آری جدم این به جهان ناجی را هدیه داد آن چاهها، آن دعا کردنها، آن انتظارها نه این که این افسانه ای از زبان جد من باشد نه اینکه اینها دور از واقع است نه هیچیک از اینها که جهان از آن خداوند بزرگ است و هر کاری به ازم و اراده اوست دور از واقع نیست اینها حقانیت جهان است اما دین ما دین خرافه نیست دین پیشرفت است دین کار کردن است و آن روزها جد دمین را صلاح دانست و حال ما باید بدانیم که این داستان گریه ای از مشکل ما باز نخواهد کرد باید طریقتی تازه بجوییم ما دینی پویاست نباید در جا بمانیم و خیشتن را محصور داریم همانگونه که ارباب داشت صحبت می کرد داود روی برگرداند تا میکایی را ببیند رنگ میکائیل مثال گچ دیوار سفید شد تکانی نمی خورد داود چند ضربه آرام به صورتش زد و باز هم با واکنشی از او ندید سراسیمه و حراسان شده بود چند بار آرام اسمش را صدا زد بدنش سرد بود او را آرام آرام به سمت همان دریچه برد دریچه‌ای که رویش باز بود و از آن وارد شده بودند آنقدر صاحبان و آلمان غرق در افکار پس از شنیدن حرف‌های ارباب بودند که کسی حواسشان به آن دو نباشد داوود میکایل را به سمت سوراخ برد. بالاخره حال میکایل به جا آمد داوود به چشمانش نگاه کرد با شوق و وصف نا شدنی گفت دیدی برادر خودت شنیدی؟ آیا ما نباید خودمان حقمان را بگیریم؟ آیا آزادی حقمان نیست؟ وقتی با شوق با میکایل صحبت میکرد از درون حس زد و نقیزی کرد ضربان قلبش زیاد شد صدای پایی میشنید در همین حال با ضربتی میکایل را از درون حفره به بیرون انداخت و گفت برو برو و به همه بگو که چه شنیده ای جملاتش هنوز کامل نشده بود که یکی از صاحبان دست به گریبانش انداخت. او را از روی زمین بلند کرد. داوود ضربتی به هیکل تنومند او زد. مرد بلند فریاد زد: بیایید، یکی از بردگان اینجاست. با فریاد او همه دویدند و پیش آمدند. میکائیل که آن سوی دریچه افتاده بود، حراسان بود و نمیدانست چه کند. به یاد های ارباب افتاد. جملات داوود در گوشش تنین انداز شد. در همین حال برخواست و به سرعت دوید و با سرعت به سمت قلمرو اسحاق در پیش بود جماعت عالمان و صاحبان دوروبر داوود را احاطه کرده بودند صاحب اسحاق از میان آنها پیش رفت تا فرد مسکور را ببیند وقتی چشمش به داوود افتاد فریاد زد این داوود است این حرامزاده و خرابکار است با ضربه های مداومی به صورتش زد و او را کتک زد نیکائیل با سرعت در هوا به پرواز در آمده بود. خودش را به پیش می برد چهره همه دوستان و بردگان در برابرش بود در راه چنگ باری سیمای ناجی را دید اما این بار نزیبا بود نه ریشهای یک دستی داشت صورتش سوخته بود مثل دیگر بردگان به چشمش آمد به سرعت پیش رفت و خودش را به قلم رو رساند بعد از کتک وحشیانه‌ای که به داوود زدند در را جستند اسحاق فریاد زد توطعه در قلمرو من در حال است. بیرون رفت تا خودش را به قلمرو برساند ارباب بزرگ گفت این برده را دار بزنید و جنازه اش را در میدان آویزان کنید این از فراری ها هم بدتر است داوود با صورتی خونید از دریچه به بیرون نگاه کرد در دلش قوهایی بود میکایی سیم خاردارها را رد کرد و خودش را به کلبه رساند درب را باز کرد و به میان کلبه وارد شد در کمال ناباوری همه از جایشان برخاستند همه بیدار بودند و منتظر همه به لبهای میکائیل چش دوخته بودند سارا خودش را به میکائیل رساند اما قبل از اینکه بتواند حرفی بزند میکائیل فریاد زد ناجی آزادی است شور و همهمه در کلبه شکل گرفت دانیال که به سختی هراسان بود گفت میکائیل داوود کجاست میکائیل گفت او خودش را قربانی آزادی ما کرد باید برای خون او هم که شده به آزادی دست یابیم سارا با چهرهی مسترب گفت یعنی فرار کنیم؟ میکایل با چهرهی مطمئن گفت نه همینجا آزاد خواهیم بود حقمان نمان را خواهیم گرفت در همین حال بود که اسحاق به سوی قلم رو در حال حرکت بود با کمی فاصله ارباب دستور داده بود تا جماعتی از سربازان را به سوی قلم او بفرستند تا از شورش احتمالی کنند. و خودش هم به همراه آنان مسیر قلم رو اسحا را در پیش گرفت بردگان درون کلبه مضطرب گفتند: چه کنیم؟ میکائیل گفت: بروید بیرون، باید همه از کلبه ها بیرون بیایند. همه برده ها باید در کنار هم باشند. در حالی که سارا و دانیال و میکائیل و دیگر برده های کلبه بیرون می رفتند، هر کدام راه کلبه و تپیله را در پیش گرفتند و همه بردگان را از خواب بیدار کرده تا بیرون بیایند. در همین بین وقتی تقریباً همه‌شان کامل شده بودند اسحاق وارد قلمرو شد. وقتی این جماعت بیشمار از بردگان را دید، مستعسل به سمت قصرش پیش رفت و بردگانی که او را می‌دیدند. میکایل که پیشتر از آنان بود، گفت: به سوی قصر حرکت می‌کنیم. اسحاق وارد قصر شد. پله ها را یکی دوتا بالا رفت و خودش را به اتاق کارش رساند. تفنگ دلولش را برداشت و آن را پر کرد. چند گلوله بیشتر هم در جیبهایش هایش گذاشت در همین بین بود که پرنس وارد شد و گفت چه شده اسحاق به سرعت و عصبانی گفت حرامزاده ها شورش کردند الان که بیرون بروم و چند تا از این بیشرفها را سقط کنم حساب کار دستشان خواهد آمد از کنار پرنس گذشت و به سوی دربا عجله پیش رفت هنوز کمی دور نشده بود که پایش به لبه میزی گرفت و سرش با شدت به زمین برخورد کرد خواست که دوباره بلند شود اما ضربه آنقدر مهلک بود که دوباره نقش برزنین شود پرنس آرام بالای سرش نشست به چین و چروک های صورتش چشم خورد بیرون غص بلوایی به پا بود. بردگان همه در پیش بودند به سوی درب های غص خود را رساندند و با ضربه ای درپ ها را باز کردند داخل شدند هنوز همه آنها به داخل قصر نرفته بودند که دار و دسته ارباب وارد قلمهای اسحاق شد تعداد بیشمار بردگان را در حال ورود به امارت دیدند خودشان را به اطراف قصر رساندند ارباب و دیگر افراد پیاده شدند و سربازان با توفنگ سرپر در انتظار دستور ارباب نشستند سیل بردگان در پیش درون قصر به طبقه بالا می رفتند که در بالای پله ها پرنس را دیدند بعضی دیوانه شده و می‌خواستند که به سوی او حمله کنند. شاید داغ دلشان تازه شده بود. می‌خواستند تقاص آن همه مصیبت‌ها بانوان و کودکان مرده خیش را از این بانوی ارباب بگیرند. میکائیل همه را آرام کرد و رو به پرنس گفت: "اسحاق کجاست؟ پرنس بدون اینکه چیزی بگوید به سمت اتاقی که در آن اسحاق افتاده بود رفت و درب را بر روی خیش و همسرش بست. بیرون غصب ارباب راه می رفت و فکر می کرد سربازانی که منتظر دستور او بودند، تا به درون غصب بروند و بردگان را لط و پار کند ارباب دستور داد، غصب را به آتش بکشید دور تا دور غصب بنشینید و هر بردهی که بیرون آمد را با تیر بزنید هیچ از این شورشیان نباید زنده از این محلک بیرون بیاید زنده ماندن آنها باعث شورش های بیشتری در دهگده خواهد شد. یکی از سربازها رو به ارباب گفت: سرورم، ولی فکر کنم صاحب اسحاق و همسرش هم درون قلعه باشند. ارباب در حالی که به آسمان نگاه می کرد گفت: همواره بر پای شریعت پروردگار بزرگ شهید میخواهد و خداوند حجر بزرگی به آنها خواهد داد. با این گفته ای او سربازان سرتا سر قصر سر را به آتش کشیدند. های آتش به درون قصر آمد. بعضی در همان اول ترسیدند و با دیدن آتش به سوی پنجره ها و درب شتافتند و تومه گلوله های سربازان شدند. میکاییر مستصل ایستاده بود. پس از چندی فریاد زد آرام باشید صبر کنید و کمی بردگان را آرام کرد. دانیال مسترب در گوشه نشسته بود و همه امیدش را از دست داده. به این سو و آنسو نگاه می کرد و هر ثانیه نقش سوختن خود را در برابر خیش تصویر می کرد. سارا در کنار میکائیل به او چشم دوخته بود و در ذهن زن زندگی رها در کنار همسرش را تصویر میکرد در همین اوضا و احوال بود که از میان سالن صدای بردی همه را به خود آورد او فریاد میزد راه را جستم راه را جستم با شنیدن صدای او همه به سمتش دویدند و دیدند که دقیقا زیر تمسیل پیامبر و عکس‌های خانوادگی اسحاق دریچه‌ای جسته و شادمان و سرمست به چشمان دیگران چشم روخته است. میکائیل به سرعت در پی فراهم آوردن همه بردگان در کنار هم شد. به هر سو رفت تا آنان را به سمت هم جمع کند. و ساراک حال همراه او در پی یک پارچه کردن هم بود. پرنس در کنار اصحاب او چشم بوخته بود آتش همه را گرفته بود و پرنس چشمیان چین و چروک های به طول یک عمر نگاه میکرد و ترپی جستن شباهت های او با پدرانش میگشت آتش زبانه میکشید. نزدیک و نزدیکتر می شد گرما تمام وجود پرنس را فرا گرفته بود اما آتش کمی با او فاصله داشت کمی دورتر ارباب به غصف میان شعله ها چشم دوخته بود و مدام زیر لب زکشیدی گفت. چیزی جز نام خدا از زبانش به گوش نمی رسید. هرچند که ذکر او طولانی و بلند بود. اما در میان همه گفته هایش تنها نام خدا قابل لمس و درک بود. در زند چند باری به داستانهای گوناگون فکر کرد و سراخرین طغیان را به آتش سوزی بدل کرد. برای فردا و فرداهایش و زندگی آینده خویشتن برده ها و تمام کائنات دعا میکرد و باز مدام ذکر میگفت جسم بیجان داوود در میدان شهر آویزان بود به درازای هزاران سال دهکده در رنج و عذاب میسوخت و کسی دم از دم بر نمی آبر. صدایی نمی کرد و نگاهی به چین و چروکهای این دهکده باستانی داشت داشت میسوخت تنش خاکستر میشد و حتی ثانیهای به اطراف نگاه نمیکرد دست به آسمان در انتظار منجی نشسته بود منجی از جای برخاست حالا به این سو و آنسو میدوید دور تا دورش را آتشی فرا گرفته بود انسانهای بیشماری که در این آتش میسوختند و لب نمی‌آوردند. در میانشان زنی چشم به چین و چروک های متفون بر خاک سوخته دوخته بود و حتی از جایش بلند هم نمیشد. ناجی که چند بار دست به دستانش داد او هیچ حرکتی نکرد گویی به این سوختن و تقدیرش اعتماد کرد و با آن خو گرفته بود سرآخر ناجی از میان پنجره به بیرون پرید از ارتفاعی به زمین افتاد و طومه آتش گلوله سربازان شد کمی بعد مردی که صورتی دراز و کشیده داشت نقش صورتش همچون تمثیل چند هزاران ساله به نظر می رسید به بالای سر ناجی آمد و دوباره همان گفتار پیشین را زمزمه کرد و زیر لب مدام زکش گفت در کمی دورتر کسی تمام این نبردها، فریادها و سوختن ها را نظاره می کرد و لب از لب نمی و جماعتی که با تلاششان سنگ ریز از میان بر می با دستان خالی دیوارهای سنگی را تکان میدادند و با تکه بر قدرت خودشان از میان بیراهه راه را میجستند. پیش می‌رفتند و خیلی دورتر از این روزگار با تلاش بسیار طریقتی جستند، راهی پیدا کردند و نوری از میان ظلمات دیدند. باز هم دست را به هم دادند دیوارها را به کناری زدند و با تلاش بسیار راه تازه را بزرگتر و قابل حبورتر تر کردند. یکی پیش رفت و دست دیگران را گرفت تا یک به یک با تلاش خود و دست در دست هم دادن از میان سختی ها و آتش و ظلم ها و اصارت ها سر برآورد. و آنگاه که همه در ساحلی امن ایستاده بودند با فریاد بلندی به جهانیان گفتند ما آزادی آزادی از آن خیشتن ماست